اللهم صلی اللہ فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستود فيها و عدد ما حاتبیه علمو که اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام و درود دارم بر شما بردارم و خواران بزرگوارم از اینکه باردگی در خدمتون هستم خداوند متعال رو شا کرم رجم نیستی آلا اونچه که با امان اسرائیل رو میخونیمش و مخفف بگیم اسرائیل از موقعی که این ها به وجودش رو تو منطقه و جنگ های بشه من مختلفی با عراب داشت آرام آرام در قرار جا با کرد خودش حالا به بعضی چیزهایی که باحتتر گیر میارید تو سایت ها من واقعا وقتتون رو سلف نمی کنم. برید مثلا آقا مرزای نو ازا 948 چی تو اینترنت بزنید کلی سایت هست درمودش صحبت میکن آرام آرام مثل یه قده سرطانی واقعی کلمه. بعضی موقع شما میشنید که اینا مثلا زمین خریدن من به شما بگم و دو نیم درصد زمین از کل اون چیزی که اشغال کردن و خریدن فقط یعنی از صد درصد که کردن دستشونه چقدرشو خریدن فقط دو نیم درصد دو درصد هم انگلیس بهشون داد اعطا کرد چون چهار تا پنج درصد چار نیم تا پنج درصد نوود و پنج درصد دیگر گرفتن چون بعضی موقع شما این 2.5 درصد می هم میادن گرانتر می خریدن ها مثلا اگه قیمت یه زمینی اونجا مثلا چه میدونم انقدر واحد پولشون بود ان واحد پولشون بود اینا سه این 4 این بعضی پول میدن 3 برابر 4 برابر پول میدن می, می فروخت چون چرا چون نگاهشون به یهودی منفی نبود چون یهودی اونجا زندگی میکنن اصلا فلسطین هم یهودی هم مسلمون هم مسیحی مسلمونش خیلی بیشتر بودن خیلی از اون مسلمونه که تو فلسطین اصلا اصلا اصالتن فلسطینی هن یعنی واقعا عربی نیستن که کوچ کرده باشن نمسال هم, هم نه مسیحی های فلسطین بودن بعد از آمدن موسلمون شدن یهودی که مسلمون شدن به این شکل بعد اینا اومدن گرفتن جنگ رو راه انداختن مرزای 1948 مرزای 1973 همینجور اومدن جلوتر و الان تقریبا هشتاد و... حالا مختلف نه. آمارایی که میدن هشتاد و سه درصد از کل سرزمینا که دست ایناست از فلسطین قدیمی قبلی یه کرانه باختری رود اردن بالا کرانه باختری باختری یعنی غربی یعنی سمت غربی رود اردن رود اردن مرزه فلسطین با اردنه بخش غربی اردن هنوز دست فلسطینی ها باقی مونده که فطر اونجاست یه تیکمی گوشه با مرز و مصر یه تیکه 40 کیلومتر در عرض 7-8 کیلومتر به صورت میانگین نوار غزه است که میگن خیلی متراکمه جمعه نوار پایینه اینا مثلا جدان حق رفت آمد نداشتن نمیدن خیلی سخت بوده خانم که چون بیمارستانه کرانه باختری بهتره باطری ضعیف هست چون بیمارستانه کرانه باختری بهتره طرف مثلا باردار بوده تصادف کرده مشکل برش پیش اومده اجازه ندادن مرده اجازه رفت آمدن این دو بخشو بهشون نمیدن فاصله هم نیست مثلا خیلی 200 کیلومتر طرفو رانندگی کن نه فاصله هم نیست نمی دونن آرام آرام آرام آرام این اومدن تو همون کرانه باختری و نوار قزم شهرک زدن فهمی چی شد به من مرز جلویی کسی که لبه مرز باشن یعنی باز این دو تیکه که فقط دست فلسطینی ها موند و این دست فرت بود الان دست حماسه توی همین هم باز شهرک زنجر رگی بریم با این شهرک ها بعد اونجا باز زیاد بشیم. هیچه این میگه مزاره فلسینیر خراب اینا. تو زمان شارون نخست وزیر بود به خاطر کشتهایی که این شهرک نشیناشون میدادن و جهود جماعت از بیخ اساس ترس و تشریف داره اینا نوار غذا خالی کردن. بعد از این خاخامه کابالیستشون فوازای ارتباط با شیاطین اینجا چیزا دارن اینا شارون نفرین میکردن. شارون نفرین میکردن و. میگفتن شارو رفت تو کما نفرین ما بوده ما مطالبی داریم اسنادی داریم که خیلی جالب اینا های تو خیابون خاخاماشون را میفتدن و نفرین میکردن خدا رو سوگن میدادن و مقدساتشون که شارو نبین بره چرا عقب نشینی کردن به قول کفوار شارو خودش یه پا قاتل بود این پدر سوخته. منطقه دیگه نمیتونست میدید برش حزینه زایب الانم امثال احضاب کسی خود خوده چیزی بیلیب نیم اینجوری اما عقیدهش این شده احزاب مرت چپ اسرائیل اینا اینا میگن نه کرن ما باید خالی کنیم لیکودی ها میگن نه باید بمونیم همونجا. میگن ما خالی کنیم صلح در برابر زمین همین چیزی که به عنوان تنتا شهرکی اونجا درست کردیم اینا خالی میکنم این رست خودشون اونا ما رو به رسمیت میشناسن بعد این یک ششور همسایمون هم ما را رو راحت‌تر به رسمیت با عربا مشکلمون رو حل میکنم اینجوری میشه میره جالب اینه تو خود لیکودیا که از احزاب راستیان الان ریویلین رئیس جمهورشون با خود نتانیاهو که هر لیکودیان با هم اختلاف نظر دارن همین اختلاف نظر داره باورت نمیشه ما تو جمهوری اسلامی یک دهم ده مشکلات اسرائیل نداریم اما بسیار هنرمندانی رو میتونه اینا پوشش روش بذاره و چون ر... هنر کار رسانهی بلدن شما سین متوجهش نمیشه چند وقت پیش بود پا... پیرار سال بود یا شما خبرش شنیدی که اسرائیل خوشون چیکار میکنن خودسوزی میکنن یا آتیش میده خودشو میگفت آمار خودسوزی ها در اسرائیل دو رقمی شد آقا مگه اسرائیل مش... مرداش مشکل هم دارن فراوان مونتو اونجا اینجوری نیست که رسانه یلخی کار کنه هکر هر چی خواستم نه هر متن رسانه ای قبل از انتشار باید از یه اتاقی دارن از اونجا افراد مختلفی افراد های حقیقی حقوقی میان اونجا بررسی میکنن بعد از اینکه خبر چک شد میره بیرون که یک نفر از افرادی که اونجا دعوته از ارتش اسرائیل فقط کافی حقو تو داره میگه آقا این برخلاف امنیت اسرائیل تموش رفقه بخشش تو جمهوری اسلامی برعکسه کلان آزادن تو هر چی خواستن بگن منتها بعدش باید من جواب بدن بعد اینکه خبر پخش شد چه چه فایده ای داره برعکس خیلی هم عمدن ببین چیکار میکنن 4 تا امتیاز روزنامه میخرن من به شما میگم یا مجلی یا سایت میخرن عمدن شلوغش میکنن که سا... م... یه چیزایی میگن که روزنامه شون چی بشه بسته بشه عمدن این کار میکنن بسته بشه که گرون بشن معروف بشن، خالف تو رفت، مخالفت کردن مرو، نه هر کسی میدونه که اصول مذهب ما تو جمهوری اسلامی جز جزو که خط خطوط قرمز شما نبات به اهل بیت کس تو این میکنه. به پیامبر به نبوت، به امامت طرف اومد توی روزنامهش عمدن ولایت امیرالمومنین و امامت امیرالمومنین زیر سال بود تو چه روزی روز قدیر؟ و عمدانه این کارو میکنه، برای چی اون معروف شه، برای اینکه از پول جذب کنه. عارفندم مثلا که پول می‌گیرن از همون طرف می‌بینیم توی آمریکا یه قانونی از اینا تصفیق کردن خیلی جالبه ما توی تو کشورمون قانون تصفیق کنیم اینا که من میگم یده میترسن توی امریکا شما اگه یک قرون پول بیرون برات بفرستن جاسوسی مگه اینکه قبلش بری ثبت نام کنی پول بگیری باید بری اعلام کنی آقا من از جمهوری اسلامی میخوام صد میلیون پول بگیرم مستند اینجا بسازم با این ظاهراً کاری بگید ندره چرا چون میخوان هر اتفاقی بیفته چی بشه؟ کانال خوشون جالبیدنی روسیه تصمیم گرفتن این کانالو تصفیه کنه. که اونم از روسایی که از خارج پول میگیرن بدونن برای چی میگیرن؟ آقا اصلا بابام برام پول میفرسته. پسرم رفته ایتالیا داره کار میکنه پول برای من میفرسته. به شما چی؟ ایرادی نداره. بگو پسرتو بفرستید. اینجوری غیر ما نتونی بفهمی یا یه, یه پولی بیاد ما میگیریم جاسوسی. امریکا که میگید آزاد آزاد آزاد همین چیزا رو داره. روسیه خاصن قانون تصفیه بکنه آمریکا بهش اجازه نمیده. داره فشار بشه میاره. چرا چون سر پولاش میسوزن توی روسیه چون کلی جاسوس تو روسیه داره داره پول میدن بهمون اینکه برای کار میکنه تو روسیه هم داره کار میکنه. خیلی جالبه خودشون قانونا تصدیق کرده اگه شما قانون تصدیق میچراتون میکنه کشورم ها آره اینجوری یعنی خبر پخش میشه کلی سر صدا و طرف معروف میشه و گنده میشه و بعد میره واو و نمیدونم فلان و به همان اینجوری چیزا بعد میجاش اونجا هم که اصلا تا دلتون بخواد خالی میبندن اینا یعنی هم شدن پدر سوخته خالی بند دروغگو جمع شدن اونجا یعنی واقعا کلمه دروغ میگن یعنی شما فکر نکنید که مثلا با فنون رسانه‌ای دروغ میگن شما متوجه نمیشین شما متوجه هم میگه لابو طرف لابو داره راست میگه این ماسماسکه نموست خونه با. بله ممنونم باقید آره ها لر موقع بس شد با ما خبر شد مر کیست؟ اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ به شما چه؟ من میخواد میگه با با کجا بلنش شما رو زدن این فرد کیست؟ اسمش چیست بچه کجاست؟ این پارازیت بعد گفت این اون این ایمیل همون بیاد بگیدیم فرد کیست اسمش چیست بچه کجا؟ کجا بلنش جمع رو زدن؟ 28 شهری بر ماه 1393 خرشیدی و 19 سبتمبر 2014 میلادی در برنامه صفحه آخر امشب میپردازیم به علی اکبر افیپور. چه یه نکته رو بگم را پور گفتن بگو حسنشو من البته نباید بگم روشن است هممون هم شنیدیم میش آدمی است بسیار خوشحافظه و بسیار خوش بیان و بیانش جذب میکنه و هر حال آدمو دیگه طبیعی اول یه دونه خوبی بگو که بگیم مصبتش هم مات، نگا مثبتش هم میگیم فنون رسانه‌ای همش مثلا اون چه میگویید اما مهمه و هدفی که داره بعضیا میگن چرا به کسایی مثل رایفیپور پور میپردازیم مرحله دوم ارزش جلو دادن شروع میشه اینا همش اصول کار یا ما تو مادرید رسانه اینا تو دانشگاه درس میدم دانشگاه مصادف. خب؟ بعد اونجا بی اهمیت جلوه دادن. چرا؟ چون وقتی یه نفری میخواد خودتون یه وقت منجر به گنده شدنش بگید، نشید. خب خیلی کسا ممکنه وا نگاه کنن رائیفی رو بگید. نشناسن. این خودش باعث بشه که چی؟ نشناسن. یه دونه یه خدای من دید که ساکن انگلیس هم بود. بعد اون چه دکترا می خوند ایرانم اومد به من جلسه گفت شما چه جوری شناختهم گفتم nah. نه گفت از یه دونه فایل فیلمی که بی بی سی شما رو مسخره کرد گفت بی بی سی شما رو مسخره کرد گفتم نگاه کن چرا چه چرت و پرتایی میگن من چی گفته بودم من گفتم که یه بحث علمی مطرح کرده بودم اینکه شلوار تنگ اگر آقایون پاشون کنن عذرخواهم از نظر شما اما یه چیز علمی کاملا چون بیزه ها رو به بدن میچسبونه با بدن بیزه هم همدما بشن احتمال عقیم شدن بالا میره در مردان خدا آفرینشش به این شکل بوده که بیزه ها بیرونه بدن, بدن مرد قرار داره و فاصل از بدن داشته باشه سه چهار درجه باید دمایش کمتر باشه خب این بحث علمیه کاملا الان بزنید تو اینترنت سرچ کنید مقالاتش هم میاد آن تو پزشکیه بعد اینو یک جوری مطرح کردن که کسایی که شلوار جین نساد من گارد بگیرن مطالعه شو با کات کردن کاتوپسی اول بی اهمیت جلو دادن بعد مسخره کردن بعد حرفا رو توهمی نشون دادن بعد حرفا رو غیر علمی نشون دادن خرافات نشون دادن بعد مرتبط دانستن با برخی از جاهایی که مثلا تو ذهن مردم میخوان منفیش کنن اینا همش فنا ببین مثلا سلشور اومد یه حرفی زد به این خانم بازیگر من حالا کارن حرفه چی چی بود مثلا اون کارن خبر این رفت تو سایت مثل بالاترین و روز آنلاین و ننم چی و هم ساله هم خب میدونید کدوم عکس سلحشی رو گذاشته بودن؟ عکس دیدار با رهبری خب حمید لولایی هم دیدار رهبری رفته گرفتی چی شد؟ پی این چیه؟ میخواد بگه این آدمایی که پیرو و این آقا هن این, این توهین میکنن و مردم شد چی شد؟ خب یکی همونر پیش یه رقص بسیار کاملی ازش اومد بیرون خب بسیار کامل بعد از آقایون خب چرا در مورد این آدم کاری گفته نمیشه؟ نه اون میدونه برعکس این کار بکنه یه اثر دیگه داره بسیار حوشمندانه تمسخور کردن. ببین شعن علمی صحبت ها رو پایین آوردن توهمی نشان دادن او را مرتبط کردن با عناصری زور و زر و قدرت و نمیدونم فلان این جور روش هاشونه روش‌هاشونه. هم این کارو می‌کردن. اول نمیگفتن مجنونه؟ دیوان اساساً شن علمی نداشت. بعد گفتن چیه؟ ساحره، جنگیر پیغمبر. تومت چی زدن؟ جنگیری زدن. جوابش هم چی بود؟ هم حجرا جميلا. جوابشون رو ندادن. اینا برعکس میخوان تو جوابشون بدی. کار خودتو کن. هر راست واقع می‌کنه چون وقتی جوابش بده که به مقصد نمی‌رسی که با مطرح کردن اینجور افراد اینجور افراد که میگم منظورم کسانی است که مخالفین زیادی دارن موافقین زیادی دارن و پر از شایعه است اطرافشون و خب آدم‌های حکومتی به طور مستقیم هم نیست نیستن آدم‌های گنده و حکومتی بنابراین با مطرح کردن این جور افراد در واقع اینا رو گنده می‌کنه ببینید ماجرای این است که این افراد و مشخصاً آقای رائفی پور این افراد مشخصاً رائفی پور تو اینا که چند نفر اسم می‌بره این ا همهشون خطرناک تره به یمن تریبونایی که در اختیارش گذاشته میشه از تنها رسانه ملی از تنها رسانه ملی تریبون در اختیار من گذاشته شده تنها رسانه ملی ان کجا 103 ما تریبون در اختیار من قرار داده شده کجا کی اینو میبینه اون کسی که رسانه ملی رو نگاه نمی کنه میگه آها پس این بابا رو تلویزیون دستش نمی‌دونه که من ما میرم سگ دنبالم میندازن آره آقا هم آرامش شامو شما دیدونم مستند شد افاق پخش کرد اون مستند 45 دقیقه بود شد نیم ساعت یک رو رائفی پورش شد نه مستند ها چی میگم فقط رائفی پورش هست شد برعکس اینا یه همش چی؟ بسیار قدری مثلا خب و انقدر فشار آوردن که از این برنامه سازا مددت من میگفت انقدر تو توی چیزا میومد توی اسمس ها و ایمیل ها و فلان ما مونده بودیم، مدیر که گفت واه یه کاری بکنید. منم نه تا چیکار کردن. یه برنامه درست کنن. ساعت 1:30 شب یه برنامه‌ام گذاشتن ساعت چند؟ هشت صبح. که می‌گن؟ دیدید اومد؟ بکنید دیگه. این سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا های سخنرانی و تبلیغاتی که شهرداری تهران به ویژه شهرداری تهران حالا یک ریال کمک کنید. یا قرون، محض احتیاط. یه جای رو شهرداری کمک کرده سالن برشون ساخته، خب. اونو خلاصو باشه اونام ملزمه که ما یه بار سالونشونو چی؟ بینا بدن. بعضی از سخنرانی ما میرم تو اون سالونه برگزار می‌کنه این میشه ماجرا. و سازمان تبلیغات اسلامی در ارتباطه. با تبلیغات اسلامی که تقریبا مثلا من ارتباطی با اون شیا اصلا تعریف نشد برام. میذارن تونسه. اما اسم خاصه. شهرداری تبلیغات اسلامی. شهرداری من چند وقت اینو زوم کردن زدنش. اونای نسل امروز و حتی نوجونای نسل امروز رو جذب گفته‌هاش بکنه چقدر استدلالی است این گفته‌ها و چه مسیری رو میره این واقعیتی است تو کشورهایی که کانالای خصوصی تلویزیون هست یعنی همه کشورهای اروپایی و آمریکا و ترکیه حتی هر کسی میتونه یه ساعتی کانالی رو اجاره کنی یا اگه امکانش رو داشته باشه یه کانال راه بندازه و هر چی دلش مخاط بگه آن‌وا بحثا و ما حرفای بی‌پایه مطرح میشه و خب هر کی طالبشو نگاه میکنه به جای هم خوب می‌خوره. خب، رایفی پورم حرف پای میزنه به شما چی؟ طرف دوست داره گوش بکنه، دوست نداره گوش بگید، نکن. دوست داره تو اون سالونی که همایش برگزار میشه به زور خره طرفو گرفتن آوردن؟ نه. نیاد اصلا گیریم فرض بکنید راست میگه، سد و ما رو چیکار میده. می من مجموعه نبوده تو کشور من، اندازه سد از جانب من نقد شده باشه. خب فرض کن رامین نگاه نکنم این چرت و پرت داره میگه بزن به شما چه یا هر کی طالبش جواب میده اما تو ایران وقتی یک رادیو تلویزیون هست و اونم دولتی است حالا 100 تا کانال داشته باشه همش سیر کنترل و نظر و سیاست حکومت و همه سخنرانیا با مجوز یا به هر حال با تایید مقامات دولتی باید باشه دیگه نمیشه گفت آزادی بیان است آقای رائفی پور هم مثل بقیه خوب هرچی میخواد بگه میخوای گوش بده میخوای گوش نده میگه اینجا نمیشه گفت چرا نمیشه گفت هیچ وقت جواب نداد اینو من رو روی همین فایل 10 دقیقه‌ای می‌خوام فنون رسانه‌ای خبری رو بهتون یاد بدم ما تو غرب فرهنگ حکومتی نداریم این یک واقعیت ای. چون حکومتی ایدئولوژیک نداره تو ایران حکومت ها تو غربن منت‌ها ایدئولوژیشون پذیرفته مادی‌گرایی رو ایدئولوژیشون پذیرفته شما اگه جیگر دارید توی کل کشورهای غربی اسرائیل رو زیر سوال برید بسم الله یه شبکه بزنید اسرائیل رو چیکار کنید زیر سوال ببرید مارلین براندو چی بود بدبخت بیچاره با جایزه اوسکار گرفتین الان کوچیکی نبود هنوز دمی هنو حامد بهناد بهداد بهش گفتن شما اگه خوشت نمیاد میگم مارلین براندو هنوز تو کفشن خیلی اونرپیشای علانی خوب بعد مار براندو رو توشکنن دم حالی بود چ هالیوود بود هالی آمود ان ران باید جووز هالیوود مال یهود تو رو اداره میشه چه هشت ساعته یه کاریش کرد اود گفتم گر که غلط کردم اشتباه کردم برم کنیمین. و خواممش شهر لو آنجلس اومد گفت به خاطر اون بخشهایی که از, د... از بخشش در تورات به ما آمخته شده در دین ما هست بیاد این رو ببخش میشه و حف شد بعد اون مارلم خبرنگار پیر زن بود هشتاد سال عم داشت یه جای انتقاطتی از اسرائیل حف شد هر عکس قوی ترین فیلترها و ایدئولوژیک ترین حکومت ها تنها کشوری که در کل دنیا اجازه میده بر خلاف قانون اساسیش کسی حرف بزنه جمهوری اسلامی خدا گواهد من اونجا مر... مرکز مطالعات راهبردی امریکا در نهایت همه اونجور برید توی امریکا یک نفر پیدا کنید که علیه قانون اساسیشون حرف زده باشه و سالم راس راس شرخیده باشه یه دونه پیدا کنید بردارید بیارید من جایزه بهتون میدم یه نفر بگید فلانی بر برخلاف قانون اساسی امریکا صحبت کرد و کسی هم با آشکاری بگید نداره تونستید پیدا کنید در یک خریت و توهمی از آزادی دارم رسن مطلب اما تو جمهورستان راحت طرف میاد میشوره میدیندازه رو بند کل قانون اساسی رو راست رسن تو خیبون و جالب همین سه دوسری ما دعوتش میکن اینجوری نیست برعکس زدن. آدمایی که نگرانی و دغدغه ملی و مذهبی دارن یعنی هم برای کشورشون هم برای دینشون در کشور ما از زدن یه پشه رو گردن آسان تره اینا داده بیداد نمی برم برن با بی بی سی و وعا و, و فلان جو چیزا مصاحبه اصلا اینجوری نیست یه میگه طرف ممنون سخنه شد اصلا نفهم که فلانی کو میگی میگی فلانی کو قیب شدی هایی دروغ میگه آقا برس من همینجا جلسات قبلیتون نشون دادم چطور اینا بر مبنای چه عقیده ای صهیونیستا دارن آخر از خرافی ترین مطالب معبد حتما باید گرفته شه معبده تو این روز ساخته بشه معبد انقدر طبقه ساخته بشه خرافی ترین مطالب اینگه حکومتی با همین سیمای جمهوری اسلامی به بچه های مملکت تذریق میشه این هم واقعیت برای همینه که برای مثال اینا رو گفتم تا یک نمونه ای بیارم که تو همین فیسبوک صفحه آخر پیام هایی که علومی جلوش اینا وقتی اومدن اینا همینجوری بودن فیسبوکشون توسط مردم عادی بمباران شد خیلی هم میرافتن گفتن چرت و پرت میگه ما صحبتای فلانی شد اینجوری نبود چرا اونجوری میگه همین ب... سایت گه هم... دکتر سلام چیچه چیه آ دکتر سلام اومد یه تیک نمک بازی در آورد به ما پرید خب هی میام شما کسی تو که مملکت نبود که اینا باش نفرن از رئیس جمهور و قوه قضاییه و نمایند مجلس ها همه رو ایم نه. نمیدن مونتا سر ماجراجی دادند ما بی‌انصافی کرد خب چون سخنرانی که مال چهار سال 5 سال پیش بود من خودم اومدم اون با اینا مصاحبه کردم گفتم دوره اونا گذشته گذشته میشون کنار واسه فرماسم الان روی مترا ما رو نمانی داد برید ببین چی شد بخش نظراتشون بمباران نظریشون توسط خود بچهای بسیجی برتا چه رای می؟ شماره بعدش خودشم گفتن حالا ما یه انتقادی که چرا ناراحت شدید خب اینا همه ایم امریکتش رو سنداختن چرا کسی واکنششون نداد با بدنه یه مردم ارتباط بگیر هنرمند یه کاری کن مردم بخواند نه این جریان سیاسی نه اون جریان سیاسی برای این کار باید صادقانه حرف بزنی دروغ بهشون نگی صادقانه حرف بزنی فطرتش شما رو میشنسی اما اگر رفتید چپ و گوره راست و بالا و پایین و اینا دیگه صادق نیستی شبیه اینی که الان میشنوید هم میبینید <todulate> یه سری حرفای رایفیپور پور راسته مثلا طرح دلار آمریکا فقط رائفی پور هم نیست که این حرف رو میزنه احمدی نجات حسن عباسی از قندی پور از قدیو میگه از قندی اولا بعد رایفیپور که به اسم احمدی نجات میاره چرا چون اینا قبلا یک کس مثل احمدی نجات شش شده قالب ذهنی یکی که بزن کنار احمدی نشا اینم یعنی اون کاملا هم مگه رئیس جمهور رو من چرا عبد مهدی طائب و امثال اینا همشون یه جور حرف خیلی از این جاهایی که درست شده به اسم محتوییت و ظهور رو نمی‌دونن مبارزه با سهیونیز با فراماسونری مصاف دیگه مبارزه با صهیونیسم و فراماسونری یکی از این چیزا همه‌شون قصه پردازی‌های شبیه هم دارن تو وبسایت‌هاشون فراوونی علی اکبر رائفی پور من سی ساله متولد مشهد بزرگ شده یه ته من نه سی ساله من نه متولد مشهد ایران محلش شهر خیلی هم اختلاف داره میگه هر دوتا رو یعنی گراش خیلی ضعیفه میانی چرا؟ چون هرچی شخم زده اینترنت هیچ هیچی پیدا بگید نکرده چرا؟ من که من شیشتونگ بودم میانیستم از روز اولی که بودم توزه سه یونیز میشه بیشه چار از این حوضی سعی گفتم میخوام برم بالای میز تورات وا کنم. بخونم بخندم. نظرتون چه؟ خولی میکشونت. گفتم میرم این خطو بگید. میشکنم بقیه بین راحت داد بزنم. والا. استشاره میگفتن این کار نکن. استخاره گرفتم سوره یوسف 64 اومد. در تو زنم. فلا خیرون حافظا و ورحم و خدا بهترین حفاظت کننده با زدیم تو خط هیچ قلط هم نتونستم بکنم خب هرچنان به شما بگری تو اینترنت رایفی پور بچه مرند میاد جوشقان کاشان میاد اسفهان میاد تبریز میاد شاهرود میاد سبزوار میاد یعنی هر جا بگید میاد این از کجا گفته بچه مشهد از تیکای مشهدی که تو سخنرانی ها می نزن نمیگم بخونید میگم بخونید <تص> درسته؟ یعنی اگه میخوای دشمن بکنی بر تو کمینه اینو بعد فن نشه بشی تو شما قبلش که دیدی چی میگم میگه این کیه قشنگ تو ما این کیه بیاد شما بگید برای همین گیج میشه بعد میاد روی مثلا سطح صحبت ها و خدمت شما رسونم روی چهره مثلا کار به سنی هم مثلا حج باید یاد بگیری تو آخر زمان امنیتی زندگی کنید نه بگیر ببند و نه ما ایرانیا خیلی فضول و پر روی و پر ایم. کسی از هم چیزی نپرسیده چکار میکنیم همی جو میگی شما برید یه اروپایی بپرسید حقوقت چقدره؟ میگه به تو چه اینقدر خوشگل میزن تو پرت که نفهمم کجا خوردی و واقعا حقوقمن به, به تو چه ربطی داره آ خونتون کجاست خب به تو چه مو بچه دفترمو نمیدونم خونما کجاست دلیلی نداره بدونم چیکار درم بهخونم راشم نمیدم. بحث کاریم جدا مسائل زندگیم چی جدا بعد نهایتا بدوننم چی میشه هیچ تازه میشم شبیه کسایی که اینو میدونه خوشش بعد یاد بگی درست نیکنی اگه میشه شر ور میگن هر کی نگونه میمیره ها این دیپلمش هم اونجا میگیره دیپلمش هم اونجا میگیره مثلا مشادو از دوره دبیرستان توی سروش نوجوانان مطلب مینویسه اصلا نمیدونم سروش نوجوانان چی چیه می‌خواستم <صحق> قسم بخورم که تا لا یک بار سروش نوجوانان دستم نگرفتم حتی گفتم شاید یه جا گرفته باشه هم کاری میکنه با سروش نوجوانان بعد چرا سروش اه مرسدوسیموس یعنی اینجریین اسم قبلا غالب ذهنی دارن شما با چسبوندن یه سر فراد قاللبای ذنی مخ و طرف پیاده میکن. سال هفتاده هفت دو هفتاد هفتاده ده ای این می هاده دو من کلاس چندم بودم. سال هفتاد پنج 20 سالش نشده که هفتاد 20 سالش نشده. هفتاد پنج 20 سال نشده یعنی نزدیک 20 سال درست شد. یعنی متولد چنده؟ پنج هشت. این اوج مثلا دیگه هوش اینا بوده که بتونن اینو درست بگن اینجا باز یه سال, خ... یه سال یه سال خراب کرده هیئتی داره به اسم هیئت منتظران هیئت منتظران مهدی که چرا بی... فعالیت مهدوی رو حالا میخواد بگه که این آدم مثلا اینجوری انحرافات مهدوی میخواد بگه داره منتظران مهدی هیچ‌کدام همچین هیئتی رو من تا توش هم نرفتم به اسم منتظران مهدی بیشتر خودش توش فعال است و سید محمد سادات اخوی رو من تا روزی که این گفتن اصلا اسمشو نشیده بودم نمی‌رسم هست <تصفيق> که حال که اینجوری نشوند قیافاشو تو تلویزیون زاره مجریه از مجریان برنامه نسبی سیما و نشون اه... दीजिए ازش بپرسید آقا گفتن رایفی پور یه با هم بودید یک جا مثلا توی سالنی که 500 متر فاصلهتون باشه از مدیرای شهرداری است و از مدیرای اولام گفت پول رو شهرداری ايه تا همسن و خودشون رو جمع کرده بودن تو همون شهرارا مدای و سخنرانی می‌ذاشتن یهو بچه‌م عله شهرارام محل تا شهرارا. حالا محل نرفتم یعنی جالبایس جایی گفتی که اصن نرفتم حالا که همین آقای علی اکبر خان رائفی پورم هم از همون جوانی اون جوانی در واقع مدای میکرد سخنرانی میکرد اصن هم... مدای سخنوتو تو یاد گرفتم این حرفا میزد که الان میزنه یه مقدار خام‌تره به هر حال اون موقع که ارز کردم که اون حیعت رو داشته حیعت منتظران و کانون پرایش فکری کودکان و جوانان کمکش میکرد بالا خونه اون معلی حیعت منتظران معتی تو همون منتظران مهتی مهدی ببخشید تو همون شهرها هم خودش با مادرش زندگی میکرد من من با مادرم جدا به پشته اوم یه جایی بوده یه بر پدر تون <تصفيق> هیچ وقت معلوم نشد که این پدره علی اکبر رائفی پور کیس و چه کار بوده. مادرش به یکی از خبرنگارایی که الان <تصفيق> به مادرش بیه از خبرنگاری که رفته خارج اروپا است خبرنگارای ایرانی <تصفيق> که الان در اروپا است گفته بود که همسرم به غیبت رفته. همین <تصفيق> رو بر بابامون ما گذاشتیم بنده خدا نیم ساعت میخندید. خب آره همسرم به غیبت رفته ببین این الفاظ اینا دقیق بریم رو آنالیزشن چی؟ بخواد ببینن اهل چیان؟ همین دکون دستگاه‌هایی که به اسم امام زمان میزنن اصلاً چی شد؟ یعنی اون فرقهایی که جلسه قبل سخنرانی کردم در موردش. یعنی مثل امام زمان غیب شده. یعنی مثل امام زمان غیب شده. دو وا چه مشخصه داشته هیئت منتظرا؟ این بین هیئت ما چه ویژگی‌هایی داشته و خاصیت میتون تشریف یادت. <laughs> یکیش این که مهم البته این تیکه مهمه البته این تیکه تأکید داد دقت کنید یکیش این که دختر و پسر تو <تصفح> هیئت کنار هم می این بیشور بکنم کنم هم تا حالا ندیده <تصفح> هیئت مختلط یعنی جدا نبود مثل حیات هایی که الان مرسوم است یا تو مساجد مثلا و دوم اینکه موضوع اصلی و همیشه اش امام زمان بود یعنی هر دو بچه مشخصی که وزارت اطلاعات تا الان یک نگاه داد این آدم آدم مجهول الهویه منویست کشیه خب بعد سواد, سواد درست حسابی نداره خرافات عجیب قریب اعتقاد دارن باباش رفته به قیبت دقیقا یعنی چی؟ فضا رفت علمی بردن تو فضای وهمی شعن علمی رو شکوندن خرافی کردن چی؟ مباحث روش همیشه حساس بوده یه روش از اولم رو مهدویت حساس بوده اینا میزن روی حساب اعترافاتشون سال 78 را افیپورو میگیره وزارت اطلاعات باز وزارت <تصفيق> اطلاعات هم 78 ما رو گرفته یعنی چند سال هم دو موقع؟ بیستو، هفتاد و پنج شدین بیست ساله دیگه ها، بیست و سه سالم بوده. زاشیش میکنه چند امه تو زندان توهید نگارش می‌داره؟ چرا توهید؟ چون چرا این نگو غزل سار نگو، اینو فرق میکنه گویا. چون توی نگاه مخاطب زندان اوین یک معنی داره زندان غزل سار، یک معنی داره زندان توهید، یک معنی داره و زندان توهید زندانی که مثلاً این داستانی که ساختن همیشه به خوردم الگونه که زات اطلاع دادم که میگیریم ور اونجا تو بخشون میده. و وقتی آقای رایفی پور از زندان میاد بیرون یکی دو ماه بعد جنبش مساف را میدازه یعنی هفتاد و هشت یکی دو ماه بعد هفتاد و هشت، الان هشت، ده سال، سیززه سال خب شرور داره میگه تا نزدیکش. 15 سال حتی نزدیکشم نگفت هم سایت اعلانونونه جنبش مساف ایرانیا سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کمک میکنن که تشکیلات جنبش و گسترش بدن و یه پژوهش کده جنبش مساف هم درست میکنن که رافی را پور توش سخنرانی ظاهران منظم داره و اینکه همه میگه... میگه من استاد دانشگاه هستم قاعدتا همین پژوهش کده خودشه مال جنبش مساف میگن که میگه استاد دانشگاه اصلا استادی دانشگاه رو زد میگه همین پدرشگاه خودش رو میگه و اینه کدوم دانشگاه چون راه پور وقتی دیپلم میگیره میری دانشگاه آزاد حسابداری میخونه و مدرک کارشناسی حتی نگرفته رهاش میکنه و میشه باید میگه کارشناسیش هم نگرفته یعنی آخر مدرک تصدیرش میشه چی؟ دیپلم. و حالا جالب این که من تو هر دانشگاه درس خونده باشم تا الان تو آزاد دقیقا درس خوندم. فهمی چی شد؟ دقیقا تو آزاد درس خوندم حالا اینا یه بخشش هم به میگم این باز یه فنه این حرفاری که میزنن یه عده میرن تو زیر بخش نظرات برنامه میرن. میگن چرا شیروور میگی بابا دانشگاه خود ما درس میده ها او یکی میگه چرا مزخرف میگی فوق لیسانس با خود من هم کلاس بود اون یکی میگه چرا چرتوپل میگه اصلا لیسانسش آزاد نگرفت و فلانجا گرفت چی میشه بگید. میشه. این هم خودشی باز یه فن دیگه است م. در همین نوت جواب داد خطاب هایی که بهش میکنن دیگه استاد دکتر علی اکبر رایفی اینکه که در زندان توحید چه گذشته برای او تو همون چند ماه یا چه قرارایی گذاشتن چون پیش آمده برای کسانی دیگری هم یعنی میبرم اونجا طرف رو دودی میکنن دیگه با وزارت اطلاعات را میاد بعد میاد میشه آدمشون حالا بماند <تصفح> من نمیدونم اما بعد از اونه که به هر حال بعد از بیرون آمدن از زندان توحید که بیشتر بر خیلی بیش از گذشته بر دفاع از حکومت متمرکز میشه و یعنی سیاسی تر میشه و میگه همین حکومت حکومت امام زمانه مثل احمدی نژاد و همون خطو جلو میره درباره ولایت فقیه و اعتراضات سال 88 رائف پور میگه تو هر دو فتنه خارجی و داخلی به اصطلاح مردم منتظر ظهور پیروز شدن و تو هم سخنش میگه که به اون رو ما قد میده که امام زمان رو ببینیم هدف اصلی این خطال من با دروغ مذنه بگم توغیت رو من برعکس کس که توقید کردن شدیددن مخالفم این سیدی زور بسیار نزدیک است من جز منتقدین جدی بودم که خودشون هم گفتن تو منتقدین ما منصفترینشون شما بودی توهین به ما نکردی گفت این کارتون داره تووقید میکن دروغ مطلقا دروغ بیار کجا گفتن ال چیزی میگه دیگه؟ بعد این تیکه‌ای هم که می‌بینید، کاد شده بخواد این وقت گرفته بشه، بخشا صحبت‌های منو پخش می‌کنه. از سخنرانی من پخش می‌کنه. او تشکیلات و سخنرانی‌ها بی‌تردی تقویت هستی اصلی و تشیع و این دیگه چی؟ بی‌سخنرانی بی‌تردی تقویت هستی اصلی تشیع. تفسیری نداره. یعنی مطرح کردن مداوم ظهور امام زمان تا شیعه به شیوهی آقایون تقویت بشه. تقویت این مهدویت طبیعتاً تضعیف جریان‌های دیگری که ممکنه به بلایت فقیه اعتقاد نداشته باشند. مثل حجتی هم هست. بعد اینجا میگه رایفولدم صد در از دو جاتی هست اینو اعتراافف میکنه ما واقعا صد در از دو جاتی هسته اونتا میگه دلیل زدن حجرتی این اینکهجمع چرا؟ چون رایپور چه آره, آره, آره آدم حکومت میخواد تو زندان چاقشو دودی که کردن اون فلا اینشه خب برده خب یه خزم هاز ها و امزجان چرا اومده کجا اومد تو سایت ما دیده تو سایت ممساف مثلا زده شده مثلا جلسه و همکاری شهرداری منطقه 12 چون سالن بموادده اونم خودش از پولش نمیدان گفتم ما یه بار بین سالن رو بگی اینو میسوزه خب حالا لطف میکنه کار نه اونم نه همه سخنرانی بخشه چند تا سخنرانی شاد مثلا دو سه ماه یه بارم عطو خب جو برگزار میشه همینو میبنده چرا چون شهرداری چند وقتیه معاونت فرهنگ اجتماعی کی اومده یه روحانی اومده یه ویژگیشون داره که آدم چه کاملا زد سایه نیست فعالیت ضد اسرائیلشون مشهوره خب ببینید چقدر قشنگ این تیکار میچسپنیم به کنارم دید. اینا فنونه ایناست یعنی رسانه شون اینه بعد این دیکتاتوری رسانه ای نیست؟ ای این دروغ دیگه که بدن مورد خود منه شاید شما ما فعلا مسئول رو نشنسید بگید من زن نیمه من که دمه دستتونم بخیلی بچه دفتا قهقه میزدن نگاه میکرده اینا خب این نکتهش سری چیه؟ دروغ یعنی همین بس شما میفهمی که بقیه حرفشون چجوریه. یعنی این کار میکنن. این دیکتاتور دکتاتور اونجایی که تو حرف تو که حرف حق نیست تو چکار میکنی. به زور به قبولونی. کی و کی دیکتاتوری رسال داره اینا. وایس آف شیطان. وایس آف امریکانی. وایس آف شیطانه. بیویسیش بی هم همینه. منتوش همین فولدر که من اینجا داشتم. و همین فیلم علی منه. توی بخش شما وقت کردم مثلا گوشت کردم یه جا نبود دیگه هر روز من اس به استاد ما آور داره مسخرهت میکنه تمسخر غیر علمی شعن علمی رو پایین آوردن توهمی خرافاتی نشوندن دقیقا نه من حتی تو ادامه اینجا میگه میگه این جنگیره این رایفوی جنگیر قدره و چی شد همه کارا رفت تو فاز جن و من چیزی که دم دستم نیست میتونه جن رو خب اینو هنرمندانه میبینین میکنه باید شما بونی هنرمند بتونی مهندسی معکوس اینو بکنی شما همینا یه مستندی هم رفتن ماورا در مورد چی زندگی رهبری رفتن آقا کلکسیون پیپ داره اینو کلکسیون اسا داره نمی‌دونم آقا های آنچنانی داره من همین بحث اسب میشه دوستی دارم تو کار پرورشه اسب او به اون فلانم چقد دقیق گفت شکر مشخص آقا بوده ترکمن بوده ازم اهل سنت ترکمن یه اسب دیگه کرده به رهبری گفتم اسبش خیلی گران قیمته گفت نه نه عکس دو میلیون تومانیه این آدمی که آوردش برام میذات یه اسب داره خودش 700 میلیون تومن اسب ترکمن دیگه خوبه خوبش 30 میلیون تومن تو ایران ارزش 30 40 تومن قیمتش آقا اونم میره تبدیل میکنه به چی یه آدم کلکسیون دار مثل پادشاههای کشورهای چی عربی اونم هنرمندانه این کار انجام میده بعد مردم ما چقدر آموزش مهندسی معکوس مسئله رسانی رو گرفت دیدن هیچ سفر سفر یعنی فقیر فقیریم از این جهت فقیر فقیر با چهار تا اکس می به جون هم دیگه عکس سوریه رو بهتون نشوندم تو فیسبوک چجره اکس ها رو جل کرده بودن؟ آره یا نه نگاه کنید خوب برج. بیانید اینو فون رسانش هم توضیح بدم براتون این جلسم همونم با همین چیز رو میره. یا میره یه اکسیمال است اسمان فلسطینه یه زن پوشیه نماده دیگه یک زن مسلمان و خیلی مسلمان هیچ جای بدنش دیده نمیشه حتی انگوشتش یک مرد با یک فرزن نماده یک خانواده زن و بچه کودک و زن چیزی که دیده همیشون میخوان و رسالان میگن انقدر کودک و زن کشتشو تو این بمباران یعنی کسی که نبود کشتیمش داره فرار میکنه میره اصل اینو آورده چی روزنامه چیز زده اینجا نگاه کن؟ اصد آرمی ارتش اسد مسبب چون این مسائلی اصل عکس هم شما خطو راهش هم بهتون یاد میدم چجوریه اکسو که گرفتید من خودمون برای من چون یه بار پیاده کرددم به حفاظت اطلاعاتی که از این مجموعه نظامی که من سخنرانی داشتم اونجا بهشون تماس گرفتودن گفتن یه ایمیل رو ما بدید میخوام یه تاپ در مورد رایفی پور بهتون نشون بدیم برید حال کنید دیگه خب بعد اینو بهشون داده بودن یه جاتون خالی در حال بعد اینا بهشون داده بودن اینا آدم باشوری بودن برخلاف برخی دیگه از مسئولین که ذره اندازه گوسفند عقل نداشتن و بعضی چیزا رو با باورشون چهار تا کلیپ براشون کات کردن بردن اینا بعد اصل لکسینه دیگه چنلارو ببین این چیزی از میشه بعد این چهجوری پیدا میشه توی گوگل ایمیج میزنید یه دونه اک... توی ن... قسمت سرچ یه دونه عکس دوربین میاد دوربینه رو می‌زنید همین عکس آپلود کنید همین هم آدرس عکس بدید عکسای که اون رنج رنگی رو داره براتون چیکار میکنه؟ پیدا میکنه. ما یه گذاشتیم. زدیم، ما عکس خدا بود یعنی اینو. کله من بود. زدیم زدیم. این عکس اومد. بعد دیدیم ما یه سریال ماهواره‌ای ترکیه ای به اسم ازل. خب؟ اما اون آدم اگه این کار نباشین، آدم توجیحی بود، منو می‌شناخت. اما بعضی از مسئولین خودمون بهتون بگم با چهار تا کلیپ زنگ زدین برام رو دعوت نکنید به خدا قسم. با 4 تا کلیپ و عکس. اینا احمقان چرا نمی‌تونه تو جمهوریت عادی نمی‌تونه زندگی کنه چه بخواد تو جمهوری که چهره کل دنیا وایستاده بخواد بی زندگی کنه مهارت زیستن تو آخر زمان نداره از همین شیبه ببینید تو اینجا تو سوریه هم داره استفاده می‌کنه عزیز دلم این کاملاً هنرمندانه انتخاب شده یک زن محجبه با بچه و همسرش آواره شده به خاطر ارتش بشار اسد برای تشجیه ها رجه ارتش آزاد سوریه جشو سوریال خور ببینید سبز، سفید، سیاه این هم پرچمه چی؟ ارتش زید. این کله ها رو نگاه کنید دوتا کله رو خب این کله رو هم نگاه کنید این کله رو هم نگاه کنید این چارتا چارت چارت فلشوشه اصل خبرمال کجاست؟ ایران آرمی دی همین شکل رویتون گفتن رو بزنید براتون تو میاره عکس شبیهشو میاره نگاه کنید اون کلار رو برش عوض کرده اینجا پرچم سوریه انداخته عاشق وطن دختر سوریه ای که پرچم ارتش آزاد خورد داره میجنگه اصل عکس بله عاشق وطنش بنت فلسطینی دختر فلسطینیه که داره اصل دستش خاک تو سرون های مردشون کنم که خوابیدن برای دقیقا دقیقاً حرفمون همینه. او با همین میاد چیکار میکنه؟ ببین شعر براش میزنه. آشقه به وطنی جهره شعره به را. در این تحصیل این خیلی جالب. جالب نیست این جنایت ها. کار جالب. ابتسم. تبسام کن. و ابتسمت سر الحیات که لبخند تو حسیس. اللهم احرق قلب بشار. اللهم احرق قلب بشار. خدای حریق. آتیش بکشی قلب است. کما همچنان که احرقه با آتش کشید قلوب و, و قلب اهل ما رو یاران ما رو نزدیکان ما رو فی سوریا عکس زننده نیست آدم جیگرش آتیش میگیره 1776 نفر اولاق اومدن این رو لاک کردن 331 نفر اومدن نظر گذاشتن تا اون موقع 857 نفر چیکار کردن شیرش کردن باز انتشار دادن میگم علاقم نشه چرا چون اصل عکس مال کجاست کازا 27 ژانویه 2009 دقیقاً ما میگیم خاک بر سرتون کنم که مسلمون عرب سنی رو اونجوری داره اسرائیلی تیکه پاره میکنه تو نشستی داری نگاه میکنی تا اون موقع این آمار بوده عزیز دل من تو این یه صفحه چقدر تو این 857 تا که شعر میشه لایک میخوره بماند چقدر باز از اون صفحه بر می‌دارن بی بیارن بگید بماند تا این لحظه اینقدر خورده بعد این که عکس گرفتن از صفحه بعد این چقد عکس خورده چی؟ بماند چقدر مردم ما آمادگی دارن پس برای تقریبا توقی تو کشور ما بخورن این کارو کنن نپوشونن اسم ها ها چقد چون آموزش ندیدن چه یاد ندادی؟ آیا عکس دیدی باور نکن یه فیلم دیدی باور نکن اینا رو میتونن بسازن مانور های انتظامی رو سال هشت و به خورده ملت میزدین تو سایتا مانور نیرو انتظامی رو با عنوان زد و خورده نیرو انتظامی رو خیابون رو خورده. من نمیگم زد و خورده نشه اینجا نمیگم بشاره صد نکشته دم اشتباه نکنید اصلا جنس ماجرا فرق میکنه خفش کنیم پدر ما ا ارحل ارهال دیکتاتور گم شو رو بیرون گم شو برو دیکتاتور اینا من عکس هاشو رسادم خط زدنوش ماشا رسد فلان فلان شده پوش دارم مش میدن و اینجاشو نگاه کن ال ابریه بگیم بهتره شاید ال عربیه خب عاجل خبر فوری بودید بیاد تو چقدر تو نه ساعت مونذ از ساعت اصل خبر مال کجاست طرفداران بشار ساد. دارم ازش همهات میکنم شما دوتا اکسی میزم کنارم نگاه کنیم ورداشته دو دوتا چیز و م... کارتون مقوایی دستش این گرفتن با موجیگ هم این آبی این قرمز خطاشون هم, هم فرق با کامپیوتر نمیشه شعورش هم تو دو دوتا فونت مختلف بذاره یه فونت نمیشته اما بدونید که یاد میگیره دفعه بچی این کارم رعایت میکنه این خیلی جالب. خب. سواری حزب و شیطان های کجا؟ حزب و شیطان کجا سیگه؟ حزب الله لبنان. تضرب میزنه البلدات سوریه شهرهای سوری رو من شمال لبنان از شمال لبنان. پس مردم سوریه میگن کی داره ما رو میزنه؟ حزب الله لبنان. اینا سنین حزب الله چیه؟ شیعه است این بشه. اصل خبر. نرس تلگراف خبر ببینید کره شمالی بوده درسته ببینید همونه. اینم هم جالب نوشته یصنع من الالم عمل سفی سوریا از درد آرزو میسازد در سوریه من الامل یولد الامل من الالم یولد الامل از درد است که امید زاده می شود همچی چیزای حرفای قشنگ قشنگ خب اصلش کجاست سان فرانسیسکو یعنی چیکار بهم رنگ زدن جا فرویس فروختن همین خودش سان فرانسیسکو رو آورده جا سوریجا زده اینجا نگاه کنین عزیز دل من 1170 نفر لایک کرد 362 نفرم شیر کردن آه اینم جالب سوراخ سوراخ شده خونه میبینید اینم باز مردم رو داره میشورونه اصلا خطابش به شعبه به مردمه خب 115 نفر شیرش کردن 161 نفر تو اون لعظه لایک سدن. اصل خبر ماله برای خود BBCه BBC نیوز این گوشه نگاه چی اینجا غزه 2 جولای 2009 اسرائیل اون برا سرشون. این خیلی جالبه قنات چی چی الجزیری پدر سوخته چی میگن پدر سوخته واقعا میگم پدر سوخته اونها هم که گفتم اولاق بهشون واقعا اولاقه اما فوش تهمت نمیزنم فوش نشه جونشون قرآن هم گفت میگه ورا میگه کماسل الحمار یه بابای شعور داشته باشن اصلا اولاغ هم بعضی نمیفهمن دختر بچه های رو نشون میده که کشته شدن و بدنشون رد بخیه داره یعنی چی؟ اعضای بدنشون قاچاق شده ببینید چی میگه؟ اصل خبر خبرگزاری سرایا فی مصر ابيقتلو بنات و او به افعیل کبرا پدر بچه کشته با افعیل ای کبرا اینا. حمدی محمود سی, سی ساله این کار کرده اینم رد چیه این بخیه هاست. بخیه کالو چه کافیه. پزشک خوان. رژه‌ی فلسطینی‌ها علی اسرائیل رژه‌ی چیز نشوند. ببین سوره الاسرا یاتل فلسطین. اومدن برای اینجا زدن. برای سوریه زدن. یا جوانی که بعد از تسخیر لانه جاسوسی مصر، سفارت اسرائیل رفته و پرچم مصر رو تیر گرفت رفت خدا ایش دمشق چجوری رفت اون بالا من نمیدونم. خب این اومده به منو چی جا خورده شده ببین قرمز فقط سبز کرده شده پرچم کجا ارتش آزاد سوریه حتی انقدر این عجله داشته این گوشه قرمزی شونده ببینید من کارم شده این کارم شده این رو پیدا کردن الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر خبر عاجل ادلب چهار بار تکبیر خبر فوری از ادلب از لب کجا سو؟ سوریه است که زدن هلیکوپتر بشار اسد رو پرپرش کردن اصل خبر US هلیکوپتر شات داون تو کجا هلمند 3 تا کشته و زخمی داشت نگاه کنین همون هواپمای پرهای گم شده عراقی که صدام زیر خاک قایمشون کرد به عنوان حوپه مایی چیز سوریه در ادلب زده شده چقدر مردم ما آمادگی دارن هیچی من به شما میگم کسی اینا رو آموزش نهده فردای تقیبه توقبه بخوره یه جریان مثلا اتفاقی سال هشته داشت تو افتاد بیفته اون موقع بگه واتساب نبود وایبر نبود زیر پتوش دیگه بچه میتونه اینا رو ببینه بگه کشتن بردن سر بریدن منگاه اکسه نبود من برتون نشون ماله داعش بود. چی یه دختری بود، دهانش دخته بودن و یه چشمش دخته بودن. درست سه؟ میتونیشم کل این خ... نرم افزار موبایلو گرفتت، آقا 80 تا وهابی اومدن، دختره شیعه رو دوزن بهشون تجاوز میکنن، میارن. یه رعب نسبت به داعش به وجود آوردن به تکفیر و بعد یهو داعش اومد تو عراق. تا سعدی و مقدادی جلولا هم چلو دو کیلومتر مرز اومد. که بیان رو برسونن به مرز، بعد بگن چی؟ داعش اومد اینم قبلا در مورد داعش این اخبار چی شنیده خودش میشه یه معضل برای نظام چرا یو ای فکر کنین 2 میلیون سه میلیون آواره از استانای غربی بیان سمت داخل کجا میخواین اینا رو جا بدی خونه زندگیشون چی میشه غلط بکنه اون نتونه بین تو مرزمان نه این خبر رو نی اما همین رو و وحمی چی چه اثر منفی داشت دیگه از سایت سایت‌های خبرگزاری‌ها بود من برش پیغام گذاشتم گفتم خیلی داره داعشو گنده می‌کنی یه فیلم‌ها خبری که داره میری اشتباه دشمن شناسانه نیست حرف رو گوش نکرد به شخصه به یکی از مسئولین عالی رتبه کشور تماس گرفتم گفتم اگر این سایتو رو جم نکنید سخن را نمی چون شما دارید به شیعه خانه زمان دیگه زر می زهد. ایشون 24 ساعت مادره رو حل کرد سایت بعضی از خبراش حتی کرد و برخی از سایت خبراش رو تعدیل کرد یعنی اما اصلا استراتژیش این بود که با ترس بیاد جلو پس کار رسانه یک چیز اساسیه میتونی واقعا از که کوه بسازی کوه هم کاه کنی. اگر شما از اسرائیل نشنیدید نه اینکه نیست به شما نمیرسد مگه اسرائیل مشکلات رست تا دلت بخواد داره یک اختلافات بسیار جدی بین یهودی عشقینازی و سفارادی یهودی عشقینازی به یهودی غربی میگن سفرادی به غیر غربیا یهودی چشمابی اونجا برده بیشتری دارن. اومم مسئولینشون که قدرت دستشونه از یهودی های چی هن؟ بله؟ عشق بله؟ اون عشق زر ده. نه. اونجوری نیست. لفظ اون لفظ ربتی نداره. حتی مثلا توی از سفارادی یه نفر ایرانی تو اونجا رئیس شمور شد به اسم موسا قصاب موسکت صاف. اینه اسم ها رو میدونی هم فارسی معنی توی ایرانم مثلا داوود میذارن هم داوود اینور هم اونور اسحاق میذارن حاجی تو فامیلش خیلی حاجی استفاده میکنن به خاطر که یک از پیامبرنش میشه حجی نبی یا حجی نبیه یعنی حاجی داره میذاره اما اون یکی دیگه منظورشه حاجی حبیب الگانیان گنده یهودی ایران که انقلاب شد اعدام شد ویروس استاکسنت که هم ضربه زدن به اینام میخواستن ضربه زدن به چیز نتنز تو روز اعدام چیزی پخشش کردن دیگه حبیب الگانیان خودشونم اعلام کرد اسم نگاه کن حاج حبیب الگانیان اسم مشترک سمی کن استفاده کن. این موسا قصاب یزدی بود موشه کتصاف اونجا رئیس شمار شد بردام به خاطر فساد اخلاقی تحت تعقیب قرار گرفت رئیس شمار اونجا تشریفاتیه اما نخست وزیرو چی آن؟ اشکنازیار، فرماندهی ارتششون اونم اشکنازی. این باعث شده سفاردی‌ها همیشه احساس چی بکنن؟ تحقیر شدن. فقط یه رسانه مابعد داشته باشیم روی اینا دست بذاریم. دادم اومده بود همینجا میگفتم یه شبکه عبری بیاد بذارید لام از صبا. تمومه. خودشون از اسرائیل به ایمیل میزنن، پیغام میدن میگن آره، یه جا پیدا شده داره حرف دله بگید، ما رو میزن. یه برنامه‌دار بی بی سی. زنگ میزنن مثلا از ایران مشکلاتشون رو میگن نمیدن او من و میگه؟ میگن بشیم تیریبون مشکلات مردم ایران بیا تو واقعا تیریبون مشکلات مردم سترال درست مشکل دیگه نه فقط نجادی تو این بس حتی بیشترش هم دارن اینا الان با موزل جمعیت مواجه شدن خاخامشو فتبول داره هر زنی هشت تا به زاد میره بهش بعد منتها با این هم باز ماجرا حل نشده اومدن رو کودک های پرورشگاهی و نطفههای های آزمایشگاهی سر میگذاری کرن رحم های اجاره ای ها اجاره میکردن زن رو پول میدادن یهودیا نطفه بسته میشد انتقال میدادن تو رحم اینا دیدن بچه های میشن. چون پدر مادر بالا سرشون نیست تربیت پر بشه. جواب ندیدین پروژهشون الان اومدن چیکار کردن برای بحث کشاورزیشون و برای این شهرکایی که دارن وسط فلسطینیاس و برای لبای مرزشون دمبال آدم میگشتن. توی اتیوپی و سودان یه قومی رو پیدا کردن به اسم فلشا. اینا ختنه میکنن. خط ختنه میکنن مثل مسلمان‌ها. مثلا فرزندان حضرت ابراهیم تو تورات دستور داده شده که مختون باشن. مسیحی‌ها این قانون رو شکستن. اونم اثر پلیس بود. پلیس گفت این کار کنی. چرا خودش عامل یهود بود. یهودی‌ها خیلی گُر, گر مسلمون می شدن حضرت عیسی از این‌ورو اومده گفتن من تورات رو بگید. قبول دارم. از اون طرف پلیس خودش یهودی بود. شاول بود اسمش. اسمش گذاشت پل. بعد یه اوسه یونانی هم گرفت شد پلیس. بعد این تبلیغ شد به چی؟ به نفر دوم مسیحیت. و رو این عملن حضرت عیسی هر قشنگ منرف کرد دینشو. این اومد گفت آقا خسنه نمیخواد بکنید. بعد با این کار یهودیات چون گُر داشتن مسیحی می‌شدن مردمشون گفتن ببینید اینا کاری میکنن که برخلاف چیه بگید تورات تورات گفته ذریه ابراهیم باید مختون باشن خاصنه کنن یعنی یه کاری میگن یعنی انحرافی رو توی دین به وجود میارن که تو تورات قبلا درماش گفته شده باشه میگن این همونه پیشگویی رو در واقع کار میکنن میسازن پیشگویی سازی کار ایناست تا این برنامه و من مسخره کرد که چرا دلار اومده اینجوری گفتی فلان اینا مگه میدونین این دلارا کی تر راهی شده این اتفاق که افتاده خبی بیشوری خودشونشون میده دیگه دقیقا پیشگویی سازی چیه؟ کار ایناست آقای آلیسکرولی 1904 کتاب نوشت این کتاب این نه، نیک 1904 نوشته شده دیکته شده توسط 412 و 666 جماس رویه اسمشونه آیواز کی بود؟ یادتونه؟ کدوم جنه بود؟ مگاماند آه. بر استاد اعظم آلیس کرالی 1904 میگه دیکته شد کتاب شریعت میگه دین ما اینه نگاه کنید چی میگه دیکته شده در 8.9 و 10 آوریل 1904 میگه من رفتم تو اهرام ثلاثه مصر، هرم خفوس این بر من وح شد. شیطان شیطان به عنوان خدا جبرئیلش آیواس رو بر من پیغمبر فرستاد. چه شیطان به من خدا؟ چاپ اول این کتاب نه ماه قبل از وقوع جنگ بالکان که خاور نزدیک را در هم کوبید. 1912. چاپ دوم نه ماه قبل از وقوع جنگ جهانی اول که غرب را در هم کوبید. چاپ سبون 9 ماه قبل از وقوع جنگ چین و ژاپن که خاور دور را در هم کوبید، چاپ جارم 9 ماه قبل از وقوع جنگ جهانی دوم که تمدن را در هم کوبید. علم غیب داشته دیگه آه. که 9 ماه قبل از اینا چاپ شد نه، بهتر بگه همین جنگا رو کی خودشون درست کردن. که انسان کشته بشه. من با این بخشش کارنم که ما شرور رو اینجوری چیزاست که اگرم بخونید اصلا مختون سود می‌کشه. ببینین آخرش. توپر از توهین ببینین لعنت برانان لعنت برانان لعنت برانان پیامبران میگه با سر قوش مانندم به چشمهای ایسا که بر صلیب آویخته از نوک میزنم کسی که امتونه این گیرسیشو بالهایم را به صورت محمد میزنم و کورش میکنم توهین به انبیاء الهی ریشش توالی سرکرولیه بعد بین آیه 72 اکراه دارم میگم آیه ببینید چی میگه؟ من سرور قوش سر چرا قوش قوش یعنی اقاب شاهین یه پرنده دیگه است اما اینکه تقریب زهن براتون به وجود بیاد چون اینا خدای هروس رو به شکل پرنده اقاب و قوش میکشتن با سر قوش من سرور قوش سر و سک... سک... سک... قدرتم کلا هم پوشاننده آسمان آبی شبست درود های هیل یه توان ویریوس about the pillars of the world درود بر شما دو غلوهای جنگاور ریوسی. آورنده جنگ جنگ آور سلح شوران به شما ها که در اطراف ارکان جهان جنگ به پا خواهید کرد چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. هست هفته شم وقت نیست من میگذرم ازش برگه ها را از راست به چپ و از بالا به پایین بچه و سپس آگاه باش اینجا گفتن بزنید برج دوگلو را خراب کنید باید دو تا برج بسازید خراب بکنید باهاش به دو تا کشور مسلمان حمله کنید. قربانی انسانی بگیرید چون شیطان میخواد. کی اینو گفته؟ 1900 رو بگید. چهار. بر مبنای مزخرفات مرتیکه مردی که اون از ساختن از بالا هم زدن. چرا باید با ساختمون خراب کردن آدم میکشتن؟ جلسه اولیتونه؟ یادتونه خدا چجر از اینو حال گرفته بود تو تورات؟ باریکش الله. از بالا با رعد و برق زده بود برجشونو رو خراب کرده بود از یاوران شیطان کشته بود این هم که از بالا ما میزنیم برژا رو خراب میکنیم از آدم های تو جز میگیریم حالا بیا حالا مثلا آیا وعا به تو فرصت میتوید یا خود دفاع کنی؟ نه سر اینه دیگه برگار که از راست بالا با پایین به چسبان شما بر همون مبنا میچسبونید میرونه همه یعنی تو دلار آمریکا ماجرا کاملا وازا اومده از پنج دلاری تا سد دلاری یادش نه چهار پنج سال پیش میگفت از 5 دلاری تا صد دلاری از تو 5 دلاری هر دو تا سالمی تو ده دلاری آتیش میگیره تو 20 دلاری آتیش پایین پایینتر تو 50 دلاری کلان میریزه تو صد دلاری فقط دودش بلند ببینید خیلی پیشگویه بر بر همین هست اونجا یه دوستای درست کردن زنیو خواستارن میکنن و اینا نه شناسنامه دارن نه من 3 بار رفتم نه شناسنامه دارن نه تکنولوژی دارن نه برق نه تلفن هیچی ندارن هرچی که بعد از مشروطه اومده رو تکنولوژی رو نجس میدونن برای سو این آقایی که خیلی سخن سخنرانی میکنه علی تکنولوژی و مدرنیته خیلی ارتباط هم داره حالا اسمشو نبریم بعد خدمتشو عرض میکنم که اینا میرن چه رفتن طالقوان اینا اصالتا تبریزی ان سال 67 رفتن طالقوان چرا چون ما یه روایتی داریم که بیشترین یاران امام از کدوم شهرن اینا رفتن اونجا که اونا باشن ما به میگیم پیشگویی سازی پیشگویی رو داره به زور با خودش کار میکنه میجورونه جور درمیاره میاره آه. کجا بودیم رسیدیم اینو گفتم بله دلار که نه قبل دلار از آلیسکرولی قبلش پیش توی اسرائیل آه خب به دارم بدیم چی؟ هیچی میاد حرفی نزدیم تو <تصفح> ده ده ده ده کنه <تصفح> دو ده ده ده بعد آره یعنی اینا چجوری این ب... مبنای فکری باطل و شیطانی عجیب غریب این کارشون اینجوری پیش میبرن و تنها جریان فکری که تو دنیا علیه این اسماهیم فقط ما به خدا هستم نیست دیگه من گشتم نبود نگرد نیست ما گشتم دوره زدیم وقت رو در لفت بگرد وقت رو نیست فقط تشیع از ناشری که این وقت خیره اینا رو گرفته اسرائیل جز از شیعه و افرادی که به حرف شیعه گوش کردن از کسی دیگه تالا شکست نخورده بهت سرچ کنید برگردیم روی بحث خود رژیم سحی نوستی. اینا یهودیای های فلاش های بدبخت بیچاره رو رفتن تو آفریقا پیدا کردن. چرا چون فقط اینا ختنه نبودن. گفتن چرا اینا خط میکنن هم بگید؟ یهودیان. برداشتن ورداشتن آوردنشون بدبختشون کردن. گذاشتنشون کار عملیگی دادن دست اینا حفاظت عرض. مرزا رو دادن دست اینا. دادن دست اینا, اینا شدیدا ناراضی ها. نکته دیگه الان من یه یهودی یه روسم یا آلمانی همه تو امریکا منم خواهم یکی شی برم اسرائیل نه بعد یه چیز بهتر بهم بدی نسبت چیزی دارم تو نیویورک دارم اشغالم میکنم منم خواهم بیر اونجا چیکار بعد یه چیز بهم بدی چی بیشتر یه کمک مالی بهم کنی خونه مفت بهم بدی ها بعد چارتم خالی بندی دینی برام درست کنی هر کی بیاد اینجا زندگی کنه میره بهش تا این حرفا این کار میکنن حالا نکته اون یهودیی که ساکن مزای 1948 از قدیم تو اسرائیل بوده، باباشم تو اسرائیل بوده، خودش اونجا به دنیا آمده هیچ پولی نمیگیره، دقت کنید. اون کسی که مهاجرت میکنه صاف پولم میشه، میاد چیه؟ یه پول اضافه تر دارمش میدن. اونی که ساکنه، شاکه. اولین کسی که تو اسرائیل خوش آتیش یکی از همین یهودیای 1948ه. گفت بر چه یه یهودی روسو میرسه برابر ما پولش بشه؟ من اینجا کار ندارم، بدبختی دارم، بیچاره‌ای دارم. مورد دیگه، اختلاف بسیار جدی بینه، سکولارها و, و دینمدارانشونه. یهودیای سکولار از یهودیت فقط نژادشو دارن یعنی ننهشون چیه یهودی هر کسی مادرش یهودی باشه یهودی میشه همین اما ذره دین یهود رو انجام نمیدن یعنی شنبه ها کلکر مغازه میدن بالا خب بابا یهودیت هم این سری احکام داره مثلا اصلا شما یخچالی که اینو شیر نگهر میدارن با یخچالی که ماس نگهر میدارن جداست شیر و ببخشید گوشت نگه لبنیات و گوشت به هیچ وجه نباید میکس بشه حرامه اما یهودی سکولار چی؟ قلب قلب میرم بالا شنبه در مغازار وام میکنن یهودی ارتودکس میرن با, شی... با سنگ شیشه هاشون رو یک دعوای بسیار جدی نمید یا یهودی که از امریکا اومدن الان یه جنبشی از جنبش زنان دیوار چیشنیدی میگم فیلانی تو دیواره پرت یعنی گیجه دیگه تو دیواره صورت تو دیواره ممیگم الانتا خانما که کلن تو دیوار آنالازی نیازی نیستش که جنبش جنبشم تشکیل بده. اما حالا نکته کیچه یه خانومی یعنی از نیویورک بلند شده اومده میگه ما چرا نباید جلوی دیوار نوادوینجری نماز بخونیم آقا شهر درست کرده برای الان اسرائیل همین یه زنه میگه نه ما هم باید همینجوری جلوی اون می‌خواد بی اجازه بیام وایسیم دعا بخونیم اون‌ها حجاب داشته باشم اونجوری دیگه یعنی مشکلات جدی بین مذهبیشون و سکولاراشون بسیار جدی تر از چیزی که من شما دیدیم ما سکولاریسم تو کشور ما نهادینه نیست بعض یه تیک می میره اما اونجا چی شده ؟ نهاد اصلا دولت دولت سکولاره. اینا مشکل ها ریخته به هم دزدی های بسیار بسیار جدی برخی از مسئولشون دزدی چهجوری ما هم دز داریم ماره میدونم خب مثلا فرمانده کل ارتش اسرائیل کول صدداد مشتجمه IDF فرمانده آ یک روز قبل از یا دو روز قبل از انگ سه روزه سهامش فروخت. چرا چون میدونه میخواد حمله لبنان حمله کنه. و فروخت شون در اثر جنگ ارزش کلی سهام اون کشور میاد معمولا چی؟ پایین. سهامش فروخت قبل اینکه دوباره بره بالا دوباره خرید. تونست دو برابر سهام بخرید. این پخش شد. به خاطر همین اسرائیل مانورای خیلی عجیب غریب رسانه‌ای روی افرادی که رشوه گرفتن رشوی دادن انجام میده. مثلا وزیرون خارجهشون آور دادگاهی کرد که چرا احتمالا تو از سفیر مات نمیدن تو کجا خدا تو برونه ای کجا رشوه گرفتی که اون رو سفیرش کردی مثلا به دادگاه کشیدن بردنش همه هیچ اتفاقی نیفتاد لیبرمن کم کمکن... کم کم کم سر جشم. یعنی مانورای رسانه خوب بیندم خواهدن این حس در واقع بزنن تو سرش یه سیر مشکلات عقیدتی دارن ترسو روی سلحشوری ندارن از مرگ شدیدن میترسن به شدت رئالیست و واقع گیران به شدت نقطه ضعف‌های های جایی یعنی شما فقط کافی مستند بسازید که آقا ایرانی اگه حملکان شما رو میخورن تموم نصف اینا فرام کنه برمیگرد نه حالا به زامبی درست کنید میخورن لفظم درست کنم اینجا پس بردار بیدا توان موشک ایران مستند درست کنید به انگلیسی. آقا ایده. بگید آقا 48 ساعت اول جنگ با ایران چهار میلیون آواره رو دست اسرائیل. چهار میلیون آواره از هفت میلیون جمعیت خیلی زیاد عزیزم. یعنی اگه ما هفتاد میلیون باشیم چهل میلیون آواره کسیتون رو دست ما. فاجعه است. کمر کشور میشکنه. بیدا تو به این اشاره بکنید که حزب لبنان که به نفع سوریه وارد جنگ شد، قطعا به نفع جمهوری اسلامی وارد جنگ خواهد شد. یعنی شما نه تنها از موشک دوربرد ایران خواهید خورد، بلکه نبرد زمینی با حزب لبنان هم بگید، خواهید داشت. بیاد بگید وقتی اینا تونلایی رو درست کنه پشت سر شما درمی اومدن، به طریق اون, اولا اون تونل ها رو الان حزب لبنان داره. و شما از مرزهای شمالی شما چی؟ تونل زده تا نزدیکی حیفا هم بیاید بگید قضه ای که ایران کمک کرده وقتی ایران هم پا جنگ بشه بگید. اون هم کمک میکنه. این مستند اصلا نگید جمهوری اسلامی ساخته. بسازه نفر هم جوزه تو این اینگلیسی بسازه. شبکه المیادین اومد یه مستند ساخت حمله هوایی اسرائیل به ایران و پاسخ ایران شبیش سازی کرد. برمبلای نظریت که پنتاگون داده بودن. نمی چه اثری گذاشت بر اسرائیل الان ها به حرفای سرسره Nasrallah بیشتر اعتماد دارن تا حرفای مسعود خوشون چون اعتقاد دارم یعنی ها ما نمیدونیم چه اما دروغ نمیگن اگه بگن یه کاری میکنیم بگید قطعاً انجامه حالا فرض کن سرسره Nasrallah بود بگه آقا ما این توانایی موشکی رو داریم سر همین نبردی که اینا با داعش داشتن الان اسرائیل اعلام کردن چون اسرائیل هم داره کمک میکنه تو می هم با اسنادی رسیدیم که باورمون نمیشد حزب الله لبنان اینقدر قدرتمند باشه ترسیدیم اینا اون چیزایی که میتونید دست بذارید و پدر اینا رو در بیاریدا پدر اسرائیل رو واقعا میشه در آورد به سادگی همینش این کار کردید ای و فکر نکنید مثلا چیز سخت و پیچیده و نشدنی و این حرفا نه به سادگی میشه اینا رو یه کاری کنید مهاجرت معکوس شکل بگیره جمعیتشون کم شه من کشور خودشون الا حرف منو جمعیت داره میشه آقا یه رفع میتونه آدمی مستند بسازه جلوی مهاجرات جدیدی که میگیری هیچ ادعیا میگم ول کن آقا, آقا. یهودی که از مرگ میترسه خوشو ببر دیدی چه جور رسانه استفاده میکرد چهار تا عکسو داستان داستانو فلانو اینجور چیز و بلد باشی تو هم نسازی او آدمی تو دیوار نمیت بسازه کسی اصلا اعتقادی به اینجور چیز نداره بعد این که اینا خیلی ترسیدن سعی این سایز دادن ته تل، تهران تل اویو. نه ما با مردم ایران دوستیم تو رو خدا اینجوری نگی. شما ببینید رهبری دقیقاً هر چی ها برام به ما بیشتر دارن به چیه دارن ظلم و جور می‌کنن و فشار می‌ارن، اذیت دارن می‌کنن، ایشون دقیقاً ادبیاتش در مورد کی داره تونتر میشه؟ اسرائیل. میگه اصل ماجرا تویی. توی این جونه برادر داری میشورونی. کار می‌کنن. اونم داره کارو شبکه زده شیعی روحانی شیعه الله یاری میاد ولدت فقیه زیر میبره میبرو چهار تا قصه میگه و داستانو بعد این طرف هم ولدت فقیه تو ذهن این جوان مثلا وقتی برش جا نیفته برش حل نکنی تو مساوی با این میشه که آقا حالا یعنی ما یه نگاه های حکومتی خشک و سیاه پیدا میکنه خیلی بده یه آقا مسیر ظهوره جز این مسیر دیگه نمیتونه باشه. تو چاره نداری جز اینکه در ایام غیبت رجوع کنیم به فقیه ها. آیه ها مساوی امام زمانه، خاک پای امام زمانه هست. اگه قرار بود فقیه ها و جای امام زمان رو ما اصلا به سمت نمی رفتیم امام زمان می‌خواستیم چیکارمون بگم؟ نه حرفا نیست. خب این تا جای ما تا اینجای بطلب چقدر وقت دارم؟ نیم ساعت ها. نیم ساعت هم برای اینکه جلسه بعدیمون طول نشه جلسه آخره ما از خدمت شما عرض یه یعنی نیم ساعت از اصول دشمن شناسی بگیم. این چیه؟ ما کسی دیگه داد به شما خودتون آورده دید. خب اونا که میگن چرا جوابشون عمومی هم بدید. میگن بعضی از فیلم رو شما اشاره کردی اینجا اینا رو به کارگرداناش اینا رو گفتید بعضی‌شون بله واقعا گفتم خب اون بحثم که مثلا در مورد مدرسه موش‌ها بود و این چیزا چون می‌دونم کسی دیگه بود که مرد طرف خب نمی‌دونم کی بود ها نه ببین مدرسه موش‌ها نویسنده فیلمش این دوه نه اون یکش خب من دوش هم ندیدم باید بریم ببینیم ارزمو چه شکلی شده اینو <تصفح> بزور شد میان زاد و کردن اینا. خب بعد ببینیم در واقع چه حالا اینجا ساخته شد اما اون کسی که من توی هم زدم اه. که من شهر موشا مدرسه موشا بخش اینجا شما زای مدرسه موشا رو گیجم کرد ش... فیلم شهر موشا یک اونجا چون یک نگاه کاملا توراتی داشت دیگه ماوس یهودی یهودیاس گربه میشه زده یهود اینا کوچ می‌کردن به سمت ارزمعود ارزمعودی که پر از نعمت و برکت شهر موشا پر از گردو پر از گیلوس و آلوالو و اونانم چیزا بعد میرسن به یه رودخونه معادل نیل، گربه هم میرسه اونجا، از رودخونه اینا رد میشن، گربه تو رودخونه فرعون غرق میشه، اصلا خود تورات تو آورده بود، یاو کرده بود چهره خب، حالا میگه اینو گفتیم، من میگم ما رو بازش که ما مص... کاری هم ندارم، خدا شدیم، سال‌هاست مثلا نمیریم. دنبالی نیستیم که نگاه منفی بشه، میگم آقا نمیدونستون نویسنده اومده برایش گذاشته. من واقعا اولین احتمالی که مورد هر چیزی میدم، میگم خود طرف احتمال بسیار زیاد خبر، نه به خدا قسم، قسم خورم. نگاه گون بسیار مثبت میگم همه خوبن مگر اینکه عکسش ساز بشه تو این زمینه های تو نگاه فرهنگی اینجوریه دیگه نگاه دشمن شناسانه همه بعدا من اینکه عکسش ساز دشمن میخواد هر لحظه ضربه بزنه نه باید بخوابی اما تو نگاه چیز فرهنگی باید از هر تهدید و فرصت ساخت بعد میگن که آقا شما چرا مثلا مشاوره‌ای نمی‌دید بعد بیان سراغ ما دیگه الان مثلا آیه شورجه ای فیننامه داش برای اصحاب اختود ما پیش ما من به مشاوری بهشون دادم هیچ ه... یک نفر بیاد بگم من بابت مشاورای که راهی فی... به ما داده تو فیلم سینماییه اون چیزا پول گرفته خدا شادی یک ریال پول نده خودم ولنشون بعضا رفتیم دفترشون خودمون تماس تلفنیاشو زدیم اینجوریه حتی پولم ازشون نمیگم که برخلاف اینکه بقیه چیکار یه مشاور تخصصش اینه دیگه خب بالاخره هم خرج زندگی داره اونها هم ندادن <تصف> فکر نکنید مثلا ممنو نگرفتم میبینین آی آقا این کمکات دستم یا سر همین سریال حضرت موسی آی سلالشور من کل سیناپسش رو گرفتم پشت صفحهاش هاش نوشتم گفتم آقا این جوری از نظر من چه کما کنه مرغ بخان رجوع بکنن میان. آیه شیخ تادی بود یه مورد اومد اونا که اومدن من که نمیدونم خبر ندارم کی فیلم ساخته میشه علم غیب که ندارم حتی یک مورد برای محمد رسول الله من فهمیدم مجید مجید داره می گفتم نگران بودم که خرابکاری نشه اون داستانی که یهودی ها از زندگی پیامبر ساختن قالب نشه ما پیغام بهمان فرستسی یه خانومی اومد فامشم یادم رفته. اومد و یه مشاوره از من در مورد معبد یهودی ها گرفت. چون گفت ما توی بخش از فیلم اینجوری میفتن اما من فیلم نمیم این یعنی سکنس هم بر بعضی از افراد خاص پخش کردن خب بعد میگفت یه یه سکنس مجا که تولد پیامبر متولد میشه درچه سابق خوش میشه ستون کجا می و اینا؟ آتش آتش آتشکده خاموش میشه یه جایش هم اسم گفت این معبد این یهودی منحرف مثلا یه ترکی بخور و اینجور چیزا مورد دکوراسیون اومد اینجا که خودش هم خیلی تحقیقات خوبی کرده خودش یعنی که مثلا معبد چه شکلیه اون مذبح چه جایی که ذبح میکنن ما هم بشون مشاوره بدیم بیان میگیم حتی میگم یه موردم من خبردار شدم نگران بودم پیغام فرستادم اونم در مورد داستان از من مشاور نگرفتن گفتن نه در مورد همین دکور فلان جور یعنی هم میگم بیا به زور حالا بعدن طرف میاد تو فیلم میسازه در میاد بره بعد بشینه خودت بزن تو سرت ببینم پیغام مگه سر راستاخیز اینجا نبود راستاخیز 70 تا تحریف داره جلسه دقیق گذاشتیم اصلا 70 تا تحریف داره فیلم راستاخیز اصلا یه جای اصلا شما میگی کنهو طرف میگم کارگوشو گفتم ما 15 روزم چقدر تحقیق کردیم تو ما تو فقط روزم گوش نردی تحقیق کردین خون حضرت علی اصغر نشوند میپوشه میریزه رو, می رو زمین است میریزه رو زمین بابا دیگه هر روزه گوش کرده باشه میدونه که خونو گرفت بگید پاشید به آسمون دیگه بر بگید بابا ما اصلا میگم آسمون برگشت قبول از بیشتر مثل میر باقری نشون میداد میر باقری پاشید به آسمون دیگه نشونه هاتو عرش رفت همینجوری بالا لاغر رو زمین ریختنشو نشون نمیدید بعضی چیزاست کار فنی سطحی تو فرات شیرجه میزنه کف سخت دیده میشه میخواد بشه امام حسین که حالا درامش فیلم ساخته نشه بره پر کنه ذهن مردم دیگه یه آش داستان عشق و عاشقی دختربازی تو کاروان امام حسن. پسر هور عاشق که دختره کاروان شده خانم فراهانی اوه چی چیه اول فیلم نریتور میاد میگه معاویه برخلاف سیره پیامبر و دیگر خلفای پیش از خود برای بعد از خودش خلیفه تنگ این عین حرف وهابی است ای با چی؟ بر خلاف پیغمبر خلیفه تنگ کرد یعنی پیغمبر خلیفه تعین بگید پس حضرت علی چی شد؟ و قدیر چی شد؟ من کنتو مولا چی شد؟ اینو یه شیعه ساخته؟ دو حتی بر مبنای عقیده و هم درست نیست چون تاریخ میگه عمرو کی تنگ کرد؟ ابوبکر خلیفه بعد خودش تنگ کرد عثمانو کی تنگ کرد؟ عمر با شروطی که گذاشت شروع نفره تو اینم دروغ داره میگی. ای چی این اصلا نه شیعه نه سنی نه وهابی. این بر؟ کی ساختی تو؟ آ چی درست کرد با کن اینو؟ اجازه اکران ندی. آی اینا مخالفن. اگر اینا حاتمی کیا میساخت اینجوری میشد اونجری میشد. بابا این نه امام حسینو چی ماموسن؟ این من میساستمش. من, مثلا من فقط به جریان سیاسی خاص نقد میکنم نه به خدا من رفتم آستان قدس مدیراشونو جمع کردن یه جا شستمیشون منو رو انداختم رو بند باید می دیدید. جلسه بعد میدید جلسه رو کنسل کردن چرا چه ششون همینجوری نگاهشون کردم گفتم گفتم شما بعد برای امام رضا فیلم می ساختید پولش رو نذاشتید کی کیه که بگن از آستان قدس به زنگ زدن بیا کمک کن نره ها کیه فرشچیانش با اون درددب کپکباش کب می دو میره اونجا براشون نقش میزنه فرمانده کل ارتش کفش داره فرمانده کل سپاه خادم اونجا از کی میتونی شما ای چیزی بخواد که بهتون نده چی ساختید ای زائر اومده چه کار فرنگی رو شده برگشته فیلم امام رضا خدا پدر فخیم زاده رو بیا که ساخت اما بعد فخیمزاده میساخ میساخت تا امام گیر دادن به پیغمبر یهودا چهارده تا معصوم برخشه گیر دادن پیغمبر جهودا فقط بر جهودا فیلم تو گیر دادن به طرف امام هادیشو نمیشته امام جوادشو نمیشته امام صادق و کوویتی ها ساختن چی ساختن؟ قیافه امامو نشون میدن یک سریال مزخرف و مزهکی درست کرد خب تو نساخته دیگه بعد چقدر جهان عرب و جهان اسلام تشنه سریال ایرانیه تو مصر وزیر گردشگریش میگفت سریال مسلسل یوسف الصدیق من الطاف الخفیت الالهی از الطاف خفیه الالهی برای سوره اسلامی مصر بود مصر. سریال یوسف پیغمبر رو میگفت از الطاف خفیه برای زدن حسنی مبارک بود چرا چون به ما یاد داد دوباره دین میتونه حاکم باشه یوسف و تو کشور خودمون به امان حاکم نشوند تو تاجیکستان میگن یه میلیون نفر نمازخون کرده مختار شما بیری تو عراق بیمش چجوری دارن برخوردن به این سریال یه سری از این مفتی های نفتی فتوا دادن دیدن سریال مختار حرام است چرا؟ چون سر حقایق تارخی رو میگفت بعد اون جوان که میگه اه بذارنم چیه یه بار هم دیگه نگاه نمی کن. چند بار نگاه میکنه؟ پنگ بار نگاه میکن تازه با این دید نگاه میکنه که ببینم چیه اگه نمیگفتن نمیشون خب ببینید سریال بسازید فیلم بسازید همه چیش هم دارید ما موشه خودمونیم دشمن من جلسه دشمن شناسیه دیگه دشمن هیچ نمیتونه بکنه. شما بگیم دشمن اون زمانی غلط میتونه بکنه که رو مخ منو تو اثر بذاره. اگر رو مخ منو شما اثر نذاره یاد بگیریم اینجوری که بهتون گفتم. یاد بگیریم جلوی فتنه هاش هیچ اتفاقی نمیفته دیگه. هر آقا یه نفر داره یه جا فیلم میسازه، اه، با خیلی اومدنا از همین سدوسیما، از مسئولینشون، مدیراشون اومدن تو مسئولین فنیشون، کارگردان، هنر پیشه، مجری، فیلم بردار، صدا بردار، هر کی اومده دفتر ما شده کارمون رو هر کی میاد میمیره. میگم چش چی میخوای؟ مجری اومده میگه آقا به من یه برنامه مهدوی سپردن من هیچی هیچ سر در نمیارم از مهدویت هی میگم نه من نمیتونم اجرا کنم ولی تسلل داشتم چون واسه موبایل میگه نه تو خوشگلی تو بعد وایس خدا شکر من مؤسسه معود سخنرانی داشتم خانمه داشته رد میشده گفت اینجا چه خبر گفتن یه سخنرانی برای امام زمانه اومده بود مالک رادیوها بود نمیگم رادیو چه لو نره بعدن بنده خدا نندازش بیرون سخنا تماشا ما بودن پایین، آید دو تا شفی سررسر بلندم چی چی بگه. ما اون پایین خانم من کنار من دادیف جلویی که بلند کرد نشسته. گفت آقا من سدوسی ماهیم تو رو خدای برنامه میخوام برای امام زمان، تو رو خدا وقت میخوام. باش میگی. وقت دادیم، شمارش دادیم، و زنگ زد و صحبت که آقا من تاییدکنندم، من مسئول تاییدکننده برنامه های دینبول دانبول رادیوام که فقط خسرو نرو میرقصونه. به من گفتن بیا برای امام زمان برنامه، من هیچ چی نمیدونم از امام زمان. تو رو خدا کمکم کن. خب بدانی نه نفر که میدونه تو برو حمودامولدینبولا رو بساز مگه بده اونا مگه دامولدین زاهران هم لازم داره بعد گفتش که نه او گیر داده تو بعد بسازی خب شما به شعور به فهم یا به نیت اون مدیر شک نمی‌کنید خداوکیلی واسه من نگاه کن هرچی شما بگید شک نکنید شک نکنیم پاشیم بشینیم چیکار کنیم بحث سر اینه به خدا یعنی ما خودمونیم دشمنو ما من که اثر بزنیم اگر موخه ما اثر نظر من بارا گفتم فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه اونی که انقلاب عزت موسی رو زد زمین قارون بود و سامری. فساد اقتصادی قارون فساد فرهنگی چی؟ سامری هر دوتاشونم از قوم موسا بودن فامیل حضرت موسا بودن ان قارون کانم این قوم موسا تمام شوخی نداریم انقلاب مرم اقتصادی و ما فرصت فرق دینی میزنن زمین. آجل جلشون نگیریم. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا فهمید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ممکن کجا در اومده باشه؟ از تو قرآن. امام قرآن میخونه، آیه قرآن برای اینا میخوند. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همون آیات فرج غلطی نمیتونه بکنه است. هیچ غلطی هم نتونست بکنه. آخرام رب زیر آب خفه شد. همه آمریکا میره زیر آب خفه میشه. اونی که زهر میزنه خودمونی. دشمن شناسی یعنی این. دشمن شناسی یعنی جلوی ورود میکروب رو بگیر از طریق واکسینه کردن نه زنجیر بستن. نه سیمخاردار بستن. نه الزامن دیش جم کردن. یه کاری کن خودش نگاه نکنه. یه کاری کن نگاه بکنه تازه تحلیلگرم بشه توی جایی. بچه پنج ساله اونرده از سخنرانی میدونه هرام به من داد نکش برداشته میشد تچش داشت بودش تا ته هرام نشونه سیونیستی بود دیگه توی یه شکلات بود بابای گو پدر من این بچه در آورده گفتم چی شده لانه جاسوسی سخنگو اینا گفتم چی شده گو آقا ما رفتیم رستوران ایکس رستوران بوغ یه رستوران زنجیره‌ایه که منتسب به همین یکی از همین اقلیت هست رو انداختن و خوبم دارن تبلیغ میکنن و یاد از این هم شیعه میرا میخورن اونجا بعدش که تموم میشه یه دونه از همین رو گفتم میفهمم یه میفهمم قصص می این حرمو میدن تویش هم شکلات تا دادم بچه پنج ساله گفته بود براش به گارسن گفته تو خجالت نمیکشی نشونه شیطانی با من میدی بعد این شکلاتم گذاشتی توش که منو خرم کنی فکر نمیفهمم تو میخوای شرطی سازی کنی من از شکلات خوشم بیاد از این حرمم خوشم بیاد فیوزا یارو سوخته بود بابا ساکت شو بی ادب عسخایی گفته نه عسخایی نمیکنم، این فمونا sore بعد آقا یارو کپ کرده بود و تو براش اون گفتم گفتم لع از کجا یاد گرفتی کوی چی داداشش دانشجوئه سخنورین شما رو آورده تو گوش می‌داده اینم دوست قنگام بیبی می‌کردم بغل یاد گرفته چی می میگه بچه نمیفهمه، اونا که میگن بچه نمیفهمه نفهمن به خدا منو بچه‌ها بچه دوم روانوایی میشه اصلا سیبیلاش در اومده میگه A, B, C, ای بی سی دی زبان بشه یاد میده چهار سالگی با زبان یاد بده بچه بعد برای همونه دیگه معلم زبان سکته بعد بکنه بالا بره پایین بده چیز بکن تو مخ این بس شد رفت دیگه اون تو بچگی با زبان یاد می‌گیره تو لبنان چهار سالگی پنج سالگی آموزش زبان انگلیسی و فرانسه‌شون شروع میشه عربی لبنانی اینم انگلیسی فول باد صحبت میکنه هم فرانسوی هم زبان مادرش عرب بعد اینجا کدوم که شما بدونین که کلاس زبان برید یاد گرفتید با همون زبانی که تو مدرسهتون یاد دادن برید بشین صحبت کنید هیچ کس تون رفتید من که رفتی تحقیقه کرده باشید جدا کلاس رفته باشید این تتاباش رو خونده باشید. نهفاه اینه، کیه؟ یعنی دنبال بیشتر این که شرکسی نمایی درستکن شرکس نمای دیدی؟ بانک باز میکنی توی چی نیست؟ چلان طری به میکنین خالیه نه نه مغازهبان کن هیچ عمق نداره چیز سحی؟ یه شهر شما قشنگ میتونه باشه عکس بگیری. ما یه شبی بود برنامه داشتم این برنامه خلیاغون ایران بایکی بچه های دفتر رفتیم اونجا توی استدیش دهمون ده چیزه شرک سینمایی چیه اون غزالیه ها آره اونجا رفتیم و بعد دیگه بالاخره اون گراند هتل و نم نمینی چیزا اینا بود ما رو پارک کردیم دیدم, دیدم ای فکر کنم من قاطی کردم دیدم لختی بعدی اومدن دارن میچرخن تو خیابونه گفتم آقا خیلی فکر کنم تونل زمان رفتیم ما اومدیم خیلی برگشتیم عقب چه بعد فهمیدم اونجا رو اجاره میدن عروسی می گیرن. بعد دیگه بنده خدا حوصله نداشتن دیگه از عروسی تا ماشین لخره دیگه دوباره چاتو چاغچوری به میچینن گفتم اونجا میریم دیگه علیه 100 متر 200 من فکر رفتم به زمان رو گذشته خب آره میری شرک سینما میینه هیچ نداره الکیه خب نه با شرک سینمای درست کن. ما آموزش زمان داریم ما به چه درد در تو در در هم نمیخوره عربی یاد دو چی یاد گرفته عربی پدر صحبت کرده زر بزر ب و زر ب و زر بزر ب و زر ب نزر ب ت زر ب تون زر ب تون زر ب زر ب زر ب زر ب نه فقاهه همینه خو پدرش چه حالا یه خو حالی عربی بی نبیم پشتواند عربی از یه قرآن بخونه یاد نگیری قرآن بشه نه بدون پدر نفرزی تحرز ما کار بردی نیست اینام کار اسرائیل دیگه نه اینام کار سیاونیزم بینور مللی اومدن یه نفر اوچپونن دو تو وای ماوی عرفات چیچی نتباها مه ی بیورزه گی خودمونه کتاب دست خودمون بوده آموزش بربرش دست خودمون بوده کار بلد نبودیم حالا داریم یاد میشیم یادم بگیریم میبینم اعلی چی چیزو گردن دشمن نندازید بیورزگیای خودمون گردن دشمن نندازیم من میتونم بگم که آره آدم اینا ممکنه یه نفر نفوذ دادن که کتابهای ما رو به این شک بنویسن ما میشه تخمین زدن شاید مثلا یه سری کساففرادم دستگیر شده باشن اما دیگه عقل و شعور جمعی تشخیص از این مشکل داره پس یعنی این جامعه دشمن شناسیش بگید ضعیف بوده عزیز دلم ترسان به خوردش بدن خیلی مطالبو این معرس موشار حالا شما شهر موشه چون تو دارم یا آقا ما اصلا چی نمیگم این داستان قوم موسا از رودخونه رد میشن فلان نباید چهار نفر تو مملکت ما داداشو در میاد میگفتن توهین به عزت موسی به عزت موسی بعد داداشون در یا نه چرا ورداشی چی کوچه حضرت موسی علیه السلام که پیامبر بزرگ ما هم در بیت ما از اینج جا نگاه میکنه اومدید به یه مش جک و جونور قیاس کردید یه تنزی بود یه باقی داشتن عروسی میگرفتن اینا اویسی ای بود و جواد و اینا باق مینواره یه قسمتی داشت هی hey, به این پسره میگفت به این جواد رضایی میگفت من تو رت توی سطل ماست و آب انداخته بودن پیدا کردم من پیامون فرستادم براشون گفتم خجالت میکشید این تو ذهن تداعی کننده چیه پیدا شدن حضرت موسی چرا دور تماس میکنید میپیام برای لویی رو جانمو به فدای پیامبران الهی و من جنب حضرت موسی علل خصوص آقا رسول الله بعد هوشیاری تو بین مردم وقتی هوشیاری بین مردم باشه نمیخواد صدوسی ما یه ارزیابی بذارن اونجا بر مبنای صلاحیت خودش ارزیابی کنه و خراب کنه، گن بزنه توی مستند و اینام چی و فلان چیزا سانسور کنه. که سانسوراش هم قربالیه، یعنی سوراخ‌های قربالش هم ریز دروش میشه. نام انتخابات سوراخش دروش میشه، آدمو رد میشن. بعد وقتهای دیگه ریز میشه. اصلا میگه صد و سی ایران تخصص داره در پیدا کردن بعد حجاب تو ها و انتخابات با حجاب تو مسابقات والیبال یارا میگفت خارج درس میخونه تو فیسبوک یه صفحه گشت خیلی وقت مامانم اینا ندیدن دلم تنگ شده میخوام رو سری سرم کنم بیام مسابقه والی چه که بار نشونش بدن خب آقا ما نمیگیم اگه واقعا بعد بعد جواب همه جا نده این میشون فنون زایه عملیات روانی اصلا از سر صبح که شروع میشه بعد موقع انتخابات هی برنامه اونم فورنگون بالا پای میپره این چون ور میخنده و میگم بابا من اصلا این به خودم میدونم برای مردم جا بناز بیچاره اگه شرکت نکن تو انتخابات مشی شرعی داری بدبختت میکنن چون اینجا امریکا و انگلیس و فرانسه و کره جنوبی و ژاپنی اینجا شیه خونه مام زمانه بری هیچ کدوم قبول نداری بین بد و بدتر برو انتخاب کن یه حرفو چی چیه برادران جا بنداز آقا دین نداری برای کشورت بنوشو شما عین حرف رهبری ایشون در مورد انتخابات چی گفت گفت اونهاییم هم که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن بیان چیکار کنن برای کشورشون یه رأی بدن شعور سیاسی مردم بر بالا نه که با عمو پورنگ بپره بالا پایین آدم جمع بکنه بیره تو انتخابات که اینا کار دشمن نیست من این مقدمه رو میگم که جلسه بعد میخوام اصول دشمن شناسی رو بگم با این مقدمه گفته باشم اینا مشکل خودمونه در همین تحریمایی که ما داشتیم با همش میگفتن همه مشکلات سیاسی اقتصادی کشور به خاطر چیه بگید تحریم اون شر و بره حرف مفته. مزخرفه از بدبخت کشاورز کی میوره میخره کی رو هزار تومان بعد توی مغازه میشه کی رو 5000 تومان البته به شرطی که مغازه در خونه مسئولین نباشه در خونه اونا مقاضاش نسب قیمته بعد آره همجه میفروشیم اونقدر اینم هم کار تحریمه یا بیارزگی شما توی جمع کردن چی؟ دلالا؟ چند وقت همه تلویزیون داره برای دلالا برنامه میذاره؟ ها چرا تا جغلر جمع کردن کار داره؟ نمیتونید بیان جمع کنیم براتون؟ به خدا؟ زمان جنگ کی اومد جمع کرد کارو؟ جوونا؟ حسن باغری فرمانده اطلاعاتش 26 سالش 27 سالگی شهید میشه 26 سالگی فرمانده این زمینی کل سپاهه که اینجا 26 سالشه داریم 27 همه سی رد کرده آو... نه بابا اینجوری هم نیست زیر 27 داری؟ نه. قالی باب 24 سالشون تو هم دلشگر بود چی؟ <تصفح> <تصفح> <تصفح> نه والا چه جوریه اونجا که جوان میخواسته بره جره توپ وایسه جره فنج وایسه میشه بش اعتماد کرد بعد اینجا الان نمیشه تو اوضاع سیاسی و اقتصادی بهشون اعتماد کرد برای جوان آرمانگره جوون جوان حسره دویدن داره جوان حوصله وقت گذاشتن داره بابا طرف اینجوری دستاش تیریبونه نگیره میلرزه باز میخواست بیاد برای ریاست جمهوری اصلا داش گفتم خداوکیلی اصلا این میلی که به خدمت وجود داره اصلا تو دل بعضی از این ها خب بابا تو دیگه الان اومدم بزرگم بنده خدا الان هم یکی یک عمیناس. خب بعد باش صحبت میکنی 10 دقیقه باش صحبت می‌کنی که ساکت دیگه من پیرم دیگه ازیتم میکنه حوصله نداره بعد می‌خواد بره سفر اوستانی خب آخووان یه موقعی شغل نظارتیه باش نیاز به چی داره تجربه و خبرگی داره باش اما برای ریاست جمهوریه که هر روز بوده بریم الان ریش شما کجاست نیویورک نیومده باید به روسیه قبلشان قضاقستان بود تاجکستان بود کجا بود ببین یعنی دائم با تو سفر باشید خب من سفر هوایی دارم بیره. پدر آدم در میاد فشار بالا پایین میشه اذیت میشه خیلی سری چیزام عجبه. شما الان خداوکیری تو تیم مذاکره کننده امریکایی یه خانم سی و است وزیر خارج خارجه اتریش بود چی بود آره چند سالشه آره همچین چیزی یعنی فکر کنم قبل کمتر تر از 100 وزیر امور خارجه کردن برای شعور دارن اون دختره رو دارن میارنش توی همین مذاکرات برای چی مثل می خندید شما شد برای <تصفيق> چی من کار یاد میگیره 10 سال دیگه 10 سال دیگه آدم خبره خبره است میگه اونجا بود حسن می‌بینی مدلشون کارشون چجوریه؟ ریس جمهوراشون بعد از بازنشست شدن میبرنشون توی ها با شعنشون حبس میشه. خب شعن و شخصیت براشون قائل میشن. علمی کارتر براش یک منطقه رو گذشن. این با آفریقا میونش خوب بود. گذاشتن مرکز پژوهش‌های آفریقا. اندازه وسعتش از مجموعه ورزشگاه‌های آزادی بزرگتره. ما با گوگل ارث نگاه کردیم. روزی 60 تا جلسه ای بسیار مهمه از این مزخرفاتی که تو مملکت ما میذارن جلسات مهم اونجا برگزار میشه که چجوری سودان تجزیه شد چجوری انقلاب مصر برگردونیم شد چجوری اینجوری یعنی جنگ بنازه فلان و به همان قبیله انجام قبیل انجام دادن این کارا رو میکنن بعد چیکار میکنن دانشی علوم سیاسیشون که مطالعات او آفریقا خونده کجا کار میکنه تو همینجا بعد این دانشجو میشه کی رئیس جمهور بعدش یا مشاور رئیس جمهورشون میشه. تو مملکت ما عربه هاشمی روابط خیلی خوبی با یه عربه خاتمی با اروپاییا، احمدی نژاد با امریکای لاتین و اینا بعد باید تو کشور ما نگران باشه که هر کدوم اینا میرن بیرون یه لغتی نزنن به نظام. به خدا بعد کلا نگران رئیس جمهور باشه تو کشور ما برای چی برای اینکه ساختار نداریم. منگه نظام بم اصلا احمدی ببره خب یه دانشگاهی بزنن تواز علوم ف... مهندسی و ایرانیان رو بعد بزنن پدر دانشگاهشو در بیارن ریشه کنش کنن خب بابا چرا این کارو میکنید خودتون بیاد هر کدوم اینا رو بزاریت شعنشون حفظ بشه بالاخره آدم رئیس جمهور مملکت بوده دوستاره شخصیتش حفظ بشه وقتی که تحت بالای مملکت به رئیس جمهور فوش بدن شما چقدر انتظار دارید از اینا نفر بی انصافیت خدا وکیلی. شما یه نفر دو تا بهتون تیکه به اندازش برمیخوره بر میخوره سر تا تهم املکت فوش میدادن بعد چقدر انتظار دارید؟ بیا منصف ما تو رو خود مزخرفات گراجات سیاسی که دو زنیتون رو بریزید بیرون یه دقیقه بدون این رنگا و بدون اینکا و عرف من رو گوش کنید خب این مشکل ماه بعد این چشن شپس نشده دوست داره دوباره برگرده کمک کنه. میل به خدمت، نمیگم دوستاش بازیاش به قدرت. میل به خدمت داره بهش بگه به عزیزم تو میخوای خدمت کنی. اینجا شده سر خر. بیا اینور کمک کن. خراب کردی اینجا هم کردی. رفته بیا اینور کمک کن. خیلی هم خوب میشه. آقا آیه هاشمی آدم خبره تو حوزه سیاسی. تجربه دستن آزمون و خطات من میگم مثلا سیاستی یاد گرفتن. برای چی که 35 سال این مملکت ان ار یه روز یه بوده فیلم ما نداشته باشیم؟ بیا این تجربه رو میذاره اون دانشجو دست آکادمییک خونده بهش بگه عزی زمین اینجوری بوده وقتی مثلا مذاکره پیش میمثل دانشجو ما این کار کنیم می نه. ما سی سال پیش با صد مذاکره میکردیم، اینجوری شد. بیاد این کار کنیم. اینجوری بازی میخوریم یا بعد این کار کرد. بعد این کار روانی عمل روانی قبلش انجام داد. اگر اینا انتقال پیدا نشه باید هر مسئول بیاد یک بار دیگه از اول خودش تجربه کنه بعضیم هم اراده خودشونه یعنی بهشون انتقالم میدی بگید سرتقن نمیفهمن گوش نمیدن اونا دیگه نمیشه کارشون که باید ای بهشون تذکر بدی بهشون بفهمونی بگید به نفع خودت فلان فلان فلان من یادم یه جلسه بود هیئت دولت آقا به بهمن نژاد گفت اچتن من مواضع تو هم اجتناب کنون جاهایی که مورد تهمت قرار میگیری. بعد به شوخی گفت. گفت, گفت، طرف بهش گفتن اچتنه من مواظعت تو هم آشق تو هم. تو هم هستم. خب. خب چقدر گوش شد آقا ما اصلا میگیم این بابایی که آقای خاصی که مثلا کنار تو بود من سیاسی دیزه سخن روی اصلا خوب. اصلا یک از سی, سی تا یاره بگید. امام زمانه بیشتر. خب. حرف من چیه؟ حرف من اینه که مو به واسطه نزدیک این افرادی به تو مورد تهمت قرار می گرفتی یا نه؟ مورد اتهام ببخشید. قرار می گرفتید یا نه؟ خب بذار کنار. بالاتر من سر بخوره به درک سر خودت به سنگ خوردن نیست دیگه آخه. میای یک سری شعارها رو لح میکنی این سری آرمانها رو از بین می‌بری، یک سری دیگه اینا نفرن پس رد بخور با بحث عدالت‌خواهی ببین میگن احمدی نژاد قبل ما. یکی با بحث جامعه مدنی و ما ما دنبال جامعمدن این خداشاده. خدا و کلی که توی کشور ما همه در مقابل قانون بگید. یکسان باش برخدشون پدر سوخته ای که آقاادده است که پدر سوخته ای که آقااد است هم بابار زدن بچه رو. خب اون پدر سوخته ای که آقااد است چرا قسر در بره؟ با این بچه راهبر صحبت میکنیم دادشون در درآددن پریز برشون سرخننه داشتیم. هیچ نمی تیم تیمحمل تیم کرد ما ججللو رو بگیریم اون جری مج کنیم تازه تییکت رو ببینم. الو بوغ اسمشو میخون ها کی میشه دیگه اعمال قانون کرد اون تو خنده بازاره مهمال قانونه تو خنده یه که فضایارم اعمال قانون کرد بله این جامعه مدنیه اگر این به این معنی بود که آخ خاتمی اینا رو میخواست ما حتی بیشتر میخواستیم آخ خاتم تو چی در فوش به ائمه تو اینا یارو که النگ اومده تو مدرسه میگه امام حسین هم بیاد ما استیزاش کرده غلط میکنه بف جد دوادت میخاندیم ما انقلاب کردیم که نام امام حسین باشه بیجا کرده هم هر میز ما اینا دمه دستم باشن با مسالمت برخورد نمیکنم و اینجای جای مصالمه اومیز برخورد کردن نی جامعه مدنی ما بتونیم بیاده. هیچ کشور اجازه میدن خطوط قرمزشون آمریکا رو گفتم برنمیتونه بر زیر سوال بیاید آقا این که آقا میگه روی نظامسازی رو ساختارها کار کنید روی نظامسازی کار, کنی. کار کنید آها من چجوری میتونم نظامسازی کار بکنم تو برعکس با فیلمی که می نویسی میتونی این کار کنی خدا شد میتونی نیاز و مطالبه این مسائل رو بیاری توی جامعه یه سریال تنز سوریهی بود سه بار تکرار شد هر سه بارش هم مردم ایران نشستن نگاه کردن چی بود مدیر کل. میدونید چرا؟ برای اینکه حرف خودمون بود حرف خودمون چرا ما یه ورژن مدیر کل ایرانی نداریم؟ چرا نه نوشته نشده میکنه شما عرضه بودید شما عزیزانی کنجا نشسته نمیگه اما کسی یعنی کسی باید مینوشته بیاید با داستانهای جالب، حالا درسته فرهنگن به هم نزدیک بودیم اما خیلی هم نزدیک بگید نبودیم با ایرانی بیاد بنویسه. این این خاص در مردم به وجود آورد. خاص برخورد با مفاسد، خاص برخورد با نگاه‌های خاص به برخی از افراد. چه چون شمایی آره چون یکی نه. بی خود همچین چیزی نباید باشه. آقا مولا امیرالمؤمنین به دخترش باخبر شد که یکی از دختراش ورداشته یک گردن بند از بیتونمال قرض گرفته برای چی؟ عروسی هم گذاشته. حضرت فرمود اگر معمور به تلمال همه نشده بود. یعنی مقصر اون معمور به تلمال بود که داده بود. و زمانت نامه نذاشته بودی. اولین کسی بودی از ما که دستتو قطع میکرد. میکرد یا نمیکرد. علی ابنه بیتول. به خدا قطع میکرد. داداشش شما گوشنگی چند وقت بود قضا نخورده. بود. اومد گوه بابا یه پولی بده من برم بخورم سمت دستش بعد بخورم. آتی شو برد سمت موید جذبش کرد دیگه اقیلو بعد این ماجرا اولین چیزی که به اشتاد میدید چه چشاش نمیدید پول و خورش درست کردن غذا خوب درست کردن کباب درست کردن این بوش و شنید در دست رفت گفت اول بذار غذا بخورم بعد با ترفیزم البته آقا باید شد برگشت این برخورد مولا بوده اینا رو اگه ما خودمون نقد نکنیم کی میاد نقد میکنه BBC و وعا و کوفت و زهرمار رو تو این نقدمون باید مبا... م... م... یه وقت خواستمون جمع باشه شیشتونگ باشیم پازل دشمن تکمیل نکنیم ضربه نزنیم جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت هر حرف راست هم نباید زد این خود مایم پس من اصلا با آمریکا و اسرائیل برای که اول که همه فکر میکنم من نگاهم اینجوریا دومبلین همه‌چی می‌رسیدن گردن دشمن نه برعکس همه‌چی می‌رسیدن خودمون چون اعتقاد دارم شیعه می‌تونه از هر تهدیدی فرصت بسازه اگر نشده مقصرما ما بود هشت سال جنگ ما برای ما فرصت به وجود آورد موشک‌سازی یاد بگیریم به خدا قسم می‌گم نمی‌کردم اگه ما سراغ این جور چیزا رفته بودیم ما ایرانیا مدلمون تا پاشون رو گلمون نزارن تکون نمیخوریم همیشه وای میستون دقیقه 90 یه چیزی تا تهش تلویزیون میگه از شما خواهش میکنیم در روزهای ابتدایی رجوع رو بفرمایید بعدش هم تون خیال تخت راحتی که دوباره چی میشه؟ تمدید میشه. یه الخیه سیستم. اینا رو بیایید یاد بدید به مردم. بیاید فرهنگ سازی بکنید، فیلم نامه ازدواج سادر یاد بدید به مردم. یک دونه سریال و فیلم تا ساخته نشده. یه ازدواج درست. من نمیگم دیگه خیلی دیگه مثلا شلو ولا هیچی دیگه نه. نه، یه ازدواج درست. من خودم می ازدواج کنم اصلا دنبال این بحثو نبودم که مثلا فشار بیارم به طرف مقابلم من نمی این کار نبعد بکنیم این کار نبعد بکنیم جو... بهش گفتم گفتم این عقاید من کاملا با هم مچه مچه بودیم بلازه فکر خانواده هم گفتن بابا بده بیاید یه مراسمی بگیریم فیلم نمی خواهیم چیواد ببینیم من ایمانه می خواهیم زنگی من مثلا می دیدم اگر یه پولی می دادم به خانومم که مثلا خرج کنه بالاخره نمی نم خواهد اسمشن الزام هم می نفقه نه تو دو دوران عقد میشه پولی بهش می دادم مثلا این ورونور میره الزام مثلا باباش پول نگیره فلان آقا که روزی گرفتیم مثلا خونه زنی همه این پول رو جمع کرده و داد به خودم که الان لازم داری خب این زندگی اگر بیاد گفته بشه به من مثلا یه برنامه مثلا من و دعوت کن تلویزیون بیای میگیم آوای چه به عمرم وزوج موافقت نمینم نه ما اینا نخواستیم یه سریال بشه درست, درست نشون بده که آقا اون موتور محرک تشکیل خانواده عشق و علاقه بین طرفین و اون هدف عالی برای زیستنه. خب برای چی اصلا ما اومدیم زندگی میکنیم خب اگه فرق داشته باشیم با حیوانات اگر این اومدی یاد دادی 4 تا پدر مادرم آموزش میبینن انماد ننه بابارم آموزش داد الان مشکل بعضیشون اینان یعنی ها الان راضیان اینان ولم کن خودم اینو کی باید این کار بکنه امام گفت صداسیما دانشگاه بعد در جای دیگه باز میگفت تا دانشگاه درست نشود جامعه اصلاح نخواهد شد یعنی چی دو تا جمله بزن کنارم چرا دانشگاه بزن صداسیما انت یعنی تا تلویزیون درست شه رو بعد نگون خودم این که میرم میشه تلویزیون تو مریخ نمیاد نه آدم های مثلا میره آقا زحمت کشی بوده فلان جدا منتو باید بده بید تأییه کننده اون تأییه کننده بیره فیلم نامیرس میکنه یکی از خودش کجا بیاره اینا رو بیا اینا وزیفه شماست فکرم نکنید گفتم یه نفت مریخ بلند میشه بیاده اینجا چیزا بسازید بر جامعه متوسط ایران فیلم بسازید ببینید نگاه میکنن یا نه یه اون جوونی که کلا دوستی ما قهر کرده تلویزیون ایران داره ماهواره با کنه با خبر میشه یه فیلمی هست با این موضوع ببین میاد نگاه میکنه یا نه نکردیم میگیم نمیشه بله سختی هم تو کار خواهد بود یه سری آدم نخاله هستن از زیاد خواهند کرد اینا خوبی کاره اگه اینا نباشه باش شک کنی به خودت و همین چی شد؟ اگر اینا نباشه باید به خودت شک بکنیم. سرتون درد بردم. از به نمازم نزدیک شدیم. تحضیل در فرج قطب آلم امکان. حضرت صاحب زبان سلامتی